اللهم صل على محمد آل محمد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناه می از شر شیطان جن و انس خب تبریک عرض می این ایام روسا رو خطاب به شما اح. امیدوارم که تندرست و سلامت باشید ما هم اجازه بفرمایید تر هر رایز رو شروع کنیم خب در نگاه کلام الله مجید در نگاه خدا اینه که خورده استانداردهای خدا با استانداردهای ما یه خورده نه خیلی فرق داره متاسفانه خوشبختانه خدا برداشت هدایت آدم ها خیلی مهمه خیلی خیلی خیلی و آدم هدایت نشده آدمی که امکان هدایتش نیست ببخشید اتم که امکان هدایتش دیگه واسشو کلاً اون بلهم ازل از حیوان بدتره یعنی اصلا حیون ارزش داره اینا استعاره ای درش نهفته است مثلا که 4000 سال پیش 5000 5000 سال پیش به نو میگه که خر و شغال و گاو و اینا رو سوار رو کشتی کن اینا رو نه سر پسرش مکالمه ای هم داره که این هم میگه نه نه نه نه ولات اصلا حواسد باشا هوشدارم میده به یون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 خودم پاسخشون داد خب از این جهت میخوام بگم که به کارتون به شغلتون اینطوری نگاه کنید. پیامبر حریس بود بر مدایت انسان ها یک نفرم حالا میخوان سالانه ده ها نفر در اختیار شما بگذارن بعضیتونم از الان کارتون شروع شده این فرصت تر یک نفر همتون کلاس اینقدر باید قربالتون ریز باشی یه نفرم از اون رد نشه این خیلی مهمه شاید بگه از من رایفی بور بپرسید مثلا مهمترین ویژگی اینکه این که این... چی شد رایفی پور شدی؟ میگم همین من واقعا سر تک تک آدم دغدغه داشتم ناز دوره دانشوی همین طور این حسو درتون به وجود بیارید اگه ندارید اگه دارید بپرور مقدس نظر دست بین بره همین بچه که شما زیر دستتونه یه روزی مینید نید منجی کشور میشه. کلی از مردم رو به راه راست میره. کار بزرگی دیگه توی سیستم کاپیتالیستی لیبرالیستی که اصالت سرمایه و سرمایه سالاریست کارخونه دار خیلی ارزشمند و عزیزه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 مقدمر گفتم نذارید دوچار روزمرگی بشید دوستان مسئله دیگه این که خودتون رو جامل اطراف بار بیارید درس های شما در دانشگاه، در مدرسه، در محیط های اطراف شما این نیست تعارف نداریم، حقم دارند. دارن شما یه سی رو بخونید که برای رشته تخصصی خودتون میخواد بچه مردمو پرورش بدید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 یعنی شما اونجا فکر نکنید رفتی مثلا چه منونم یه تانجانکو تانجانت برای رو حساب کنی باشی بیای، نه این خیلی مهم مسئله دیگه این که کسی که روی انسان داره کار میکنه باید انسانو خوب بشنسه بنده با عنوان یه پژوهشگر، تحلیلگر وقتی مخاطب من انسانه برام مهم شد یه دو سالی رفتم، نورساینس خوندم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 مگه میشه این نفر هرمونا رو نشناسه بخواد به کسی حرف بزنس کسی از این طور نیست متاسفانه حالا اینجوری شده ها یعنی یه نسخه یکسان میدن به همه آدمان نه آقای نه الان یه تحقیق هم میدن صبح برای که بچه داشتم بخوندم انجام روی صد و تا مرد چی میشه که توی این مردا وقتی یه خانمی میاد باشه محترمانو صحبت میکنن اینا میکنه. چی میشه الو؟ آره یه فکر های میاد سراغش این که محترمانه و مهربان صحبت میکنه این یا اینه این پالس داره میده و بعد آوردن اینا رو دو گروه کردن یه گروه اول تستسران دادن که هم دادن 11 میلی گرم چه بعد با اون گروه دیگه دارونم ها دادن که اثر تلقین رو از بین ببرن به وضوح در گروه اول این پر رنگ تر بوده. یعنی گروه اول برداشتین داشتن که این خانم مشکل داره این. مرزی داره کرم درخته. خب اثر هورمون بر تصمیم، اثر هورمون بر بعد آدم اینا رو ندونه. سر صبح بچه مادر معلومه یا دست شما میدن. یکی سردیش کرده به قول ما ایرانی‌ها، یکی گرمیش کرده، یکی اینا. اینا هر کدوم یه لَم دارن. متاسفانه تو ساختار کاپیتالیستی و نظام سرمایی دارید چون دنبال این بود آدم برای کارخونه درست بکنه به, آ... به مدرساً به دیده کارخونه نگاه کرد دیگه همه کلا ها کچل همه یونیفورم یکسان فیلم که تاجه که میتونست حتی نمیتونست تحمل کنید لباس های مختلف بیان بشیند فیلم که کاله های متحد و شکل اگه میتونست بارکود چون بوشون میزد خب چون اینا گذاشت. نه. اینا هر اینا ها اثر شما همین همین خودتون نگاه بکنید با خواهر برادراتون تو خونه کلی جنگ جوانی داشتید یا دارید هنوز هم دعوا دارید با هم چرا؟ جفتتون توریده یه کار خونه اید یه تربیت، یه لغمه، یه نطفه اما کلی تفاوت، بله بعد چطور شما از سی تا چلت دانش آموز بیان سر کلاس میشونن هر کدوم مال یه فرهنگه، خانواده، یه جنتیک، یه جغرافیا، ها فرق ها فر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 اورو مطالعه کن الان به خدا قسم این ابزاری که شماها دارید به قرآن اگه ما داشتیم یه اینترنت دایلوپ تخیلی بود جز... صدای مزخرفی هم در می آورد می تونستی بگیری من تو گوشیاتون بیخ دلتون انوار اصلا هر سایت یوتیوبره خوش دانشگاهه زبان بلد نیست زیر زیرنویس میزنن میزن فارسی می نگاه میکنی قشنگ این امکانات رو قدر بدونید بهره ببرید همین ابزار هوشمند این کلام فرامشه واقعا این دستیار برادم واقعا یه دستگار گفتم <تكتش> که من اول نصیحتتون کنم فایده ای نداره من حجته بر خودم خدا تمام کنم بگم من وظیفه هم بود خدا به اینا بگم و اما مقلی خان امام قلی خان رو خوندود مقلی خان بریم راجع به از من میخوام از یه زاویه جدیدی بهش بپردازم چون میدونم اینا رو تلویزیون به شما نمیگه ببینید عزیزان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 می‌گیام چه حرفی میزنه چند تا مطلب داره اولاً یعنی تصمیم قطعی دوماً یعنی آن چه که پی... آشکار میکنن از اون چه که پنهان کردن به مراتب کمتر است این نوک قله یخه ببینید چه روابطی پس پرده بوده یعنی چیزی بین هند و اسرائیل هست چیزی بین مثلا امارات و اسرائیل هست بین اردن و اسرائیل هست بین قبرس و اسرائیل هست بین یونان و اسرائیل هست بله خود جنس بیار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 من بنا رو برام می‌گوزم لپ‌تاپم تو خیی می‌خوان بدوزن تو عکسش رو گرفتی بابا من واسه بشم به اینترنت مستقیم بریم سیر و گلکی کنیم ببینیم بله عرض می‌کنیم خدمت اگر کسی وقایع منطقه رو بدون این بخواد تحلیل کنه یقینا تحلیل خام و احمقانه ای اصلا کل ماجرا مساهم چین بود کل ماجرا شلوغی هنگ کنگ به چین ربط داشت کل ماجرا که بعدش تو اتفاق افتاد به چین ربط داشت کل ماجرا که بعدش تو فرانسه اتفاق افتاد به چین ربط داشت اصلا حرفا چی چیه شما برید اینا که میگم برید سرچ کنید سخنرانی من دانشکده شاید رجایی ماست تو اینترنت برید دانلود کنید به محض اینکه عادل عبدالمحدی نخست وزیر عراق با شی جین پینگ رهبر چین جلسه گذاش عراق ریخت به هم اون سالی که انا حاج قاسم زنده است خاطرتون باشه عراق بدجوری ریخت به هم آشوب شدین قیام جوکرها این موتور چرخار خارور میوردن پارک میکردن میریختن به هم فکر برای چی بودین پالس به چین و عراق که ما اجازه نخواهیم داد شما پارو شیفت کنی اجازه نمیدیم تو ما اومدیم عارقه اشغال کردیم بری با چین ببندیم حالا مثلا بدبخت عادل بد چی می‌خواد؟ میگو بابا ما اگر بزرگترین دارند های انرژی در دنیا هستیم به قرن برقمون برقمونن غقطشه ما نرگاه برق میخوایم آمریکایی برایشون نمیزنن. رفت با چین ها قرارداد ببنده میگه اززی به نفت و ببر برای ما نیرگاه بزن تهاطور کنه. به یک هفته دو هفته عراق با آشوبشوندن. ماجره خانم امینی هم همون اتفاق افتاد روزی به شما 25 شهریور ازاد 400 ایک رو برید نگاه کنید دیدار رئیسی با شی جینگ پینگ در ازباکستانه برای پیوستن ایران به پیمان شانک های در همون روز کشور ریخ به هم من شوخی برداره سال بعدش فرانسوی ها مکرون سفری کرد به چین در اونجای خورده گنته درنش حرف موزد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 یعنی اروپا فرانسه من از اروپا داشتید حرف رو چین اون طرفه آمریکا این طرفه ما جدا زل سومیم. ما رو تو بغل آمریکا نبینید حرفش این بود گفتن عجب که اینطور برو این چه ولی سر فرانسه بودن یه پلیس به یه جو... نوجوان هیوده ساله تو ماشین شلی کرد کشتش یک ماه تمام فرانسه به آتیش کشید مکسون گوه غلط کردم فیتلا کشتم پایین تو تو فوش به داد. اومد پایین. تو فکر نکنی. ما مردم متوجه نیستیم مثلا ماجرای مثلا تو ایران افتاد سر ماجرای خانم امینی رو تو چی تا تو چه کانتکستی شما تحلیل میکنی فقط تل... ماجر حجاب الان ببین بریگز اومده رونمایی کرده از ارزش تازه فعلا رونمایی کرده گفتم وایس ببین چیکارتون کنه. تو ارز 5 روز 6 تا فیلم پرن اومده بینو تو معلومه که. یکی لخ شده یکی بندری داره می‌رخصد و یکی کنونم چکار داره می‌کنه که همه همزمان می‌ها رو چی سوار میشه زخم هست که مگس می‌نشیند بله من نافیه نیستم که اینا که داریم می‌گیم این ها وجود دارد گسل قومیتی در فرانسه وجود دارد مهاجران مسئله هستند، حجاب در اینجا مسئله هست اما چی میشه یوهوی رادیکال میشه ماجرا چی میشه ماجرا اینجور رادیکال میشه خب فردا اگه من و شما تحلیل درست نداشته باشیم یه کنجی بس خودم تو خواب و خیالی شروری بس خودم سرهم میکنیم بعد فکرم میکنیم این تصمیه درسته خب این نیست بشنسیم بدونیم تصمیه واقعیت چی بوده بعدش میفکر بکنیم سمم آزا حالا یه خاک تو سرمون میکنیم <تصفيق> و یه بحث دیگه است اینا قابل جمعه اینها قابل جمعه ونزوئلا رو چه حسابی به همین من همه‌شو بابتش اینا خدمت هم شما عرض بکنم مطلب دارم کار کردم وقت گذاشتم عمرمو گذاشتم والله های ما به تحقق معروفه یعنی ما علم که نداریم که جادو جنبل که بلد نیستیم رجا ال هم نیستیم همینا رو می‌چینیم که نگید اگه شما تحلیل یعنی شما تردید نکنید اصلا دلیل اصلی که قذافی در لیبی کنار گذاشته شد بود یه آفر بودیم بدبخت داد تو اتحادی آفریقا گفت بیایید ما عرض مشترک داشته باشیم همین بقیه بهانه است قذافی قبلش هم همون آدم بود بعدش هم همون آدم یوحوی دیکتاتور شد آنه عقل نداریم صدام قبلش نمیدونستن چه یوحوی به نجده برزنش به بیرون صدام سال ها بود دیگه نفتر برابر برغضا داشت اجرامی شد نفتشون میگرفتن بهش فقط غذا و دارو میدادن یوهای سلاح کشتار جمعی پیدا. گفتن بریم پیدا کنیم تو عرق خب حالا یه ملیون هم بعدش تو عرق کشتار جمعی پیدا کردید کفتن پیدا نکردن نک چی شد ها چما فکر هست فکر میکردی هست چرا؟ چون صدام تو اتحادیه عرب پیشناهاد داد عرض عربی مشترک. شما وقتی می‌خواد مثلا دلار رو بذاری کنار بازوامش نگام کنن تو این کانتکست تو این فضا تو این اتمسفر در این بستر تحلیل میکنید؟ تحلیل کن بیا اونا بر دنیا دارن زندگی می‌کنن دیگه اعتقادی به آخرت که نداره که همه چیز این دنیاست تحلیلش اقتصادیه مناف شما اگه ساختار این منافع گروه رو نبینید تحلیل زینف آن نتونی بکنی با کنیم؟ نمیدونی نمیدید باید تصریم میکنید همین الان ما مثلا یه حالی به عربستان بدیم چین سه داشتر بد قیمت نفت رو بریم بالا چین سه داشتر کشور شوید دوست و برادر بعد وایستیم اون طرف مثلا همین الان سر ترامپ. روسا دوست دارن، ترامپ یا سرکار عرب دوست دارن، ترامپ یا سرکار ترک دوست دارن، ترکیه، غذاقستان برو تا از جمرو از تا غذاقستان، ترامپ یا سرکار چین چینیا دوست ندارن، ترامپ یا سرکار ایران دوست نداره، ترامپ یا سرکار قبولا بعضی از اینا با هم، نزدیک هم هستن اینجا یوحوی اگر تو شما درست نتونی تحریل بکنه همون رفی حداقلش این دیگه تا حالی بده نمیده حد این تو سازمان من منتظره یه رعی بده رعیاره نمیده حداقلش ممکنه سر تا جزیره یه موزگیری خاص بکنه نه ما الان باید بگیم ال کنیم بل کنیم بجنگیم نجنگیم نه رو حساب کتاب باید باشه دیگه همه هر زمان اینه. خب اینو باز کنم میگویم علت خاصی فوزل خب محضر شما عرض بکنم چین اگر بخواهد بذاری قبلش یکم توضیح بدم 80 درصد تجارت دنیا از چه طریقی انجام میشه بارک دریا دریا امنیتش دست کیه قر چهارصد سال بر تنگه ها اونها مسلط 400 سال از زمان هلند پرتغال پرتغال هلند انگلیس آمریکا و همین ترتیب بوده از ده از ها بوده و راه زمینی برای اینا یعنی تمام شدن اینها. بسیار بسیار ما چین داره چی کار میکنه طرح بی آر آی داره اجرا میکنه وان رود وان بلت یک جاده یک چمروند چین اومد چی کار کرد گفت یه راه ببینید چین افغانستان ایران این عادی ترین راه درست ترین راه قدیمی ترین راه همین بیاد بره تا از ترکیه یا از قفقاز بره تو اروپا خب این راه قدیمی جاده عبریشم و بیاد عراق بره. همین بوده, اونجا چند راه می شده میمده پایین به بقداد این از اون وقت ابریشم هم از من ادویه میداد هندیه، این بوده همه چیز ایران ایران با اندازم ایران بوده یعنی خود تاجر چینی تا بغداد نمیرفته تاجر ایرانی می رفته از چین می آورده. ایران میداده به تاجر بعدی اون می برده به بغداد اون می برده به ترکیه یعنی توجار ایرانی همه کاره بودن نه نه داشته باشه فکر نه به ندرت بوده که یه نفر از اونور برنش بره چون حوزا تخصصی بوده و زبان رو میدونستی اینجا بااز ایران بوده همین کارون سرهایی که تو مسیر میبینید قدیمیه مخصوصا جاده مشت که دارید میری دست راستتون با فاصله هزار متر پایینتر خب یه جاده خاکیه اون جاده قدیمی بوده خاین اتفاق افتاد آمریکایی‌ها افغانستان ریختن بهم به مگه آمریکا نرف افغانستان که حکومت دست طالبان بگیره سوال مگه این جواب نیست واقعا همین بوده دیگه آمریکا کلی چیزه آ اینا آدمکشن اینا آدم خورن اینا طالبانی ها فلان ها ما ببینیم افغانستان دست اینا و مردم ظلم نکنن درسته خب چرا بعد 20 سال دستی دست تقسیم کرد به طالبان اومد بیرون یک سوال اول ما سواله دو چرا 80 میلیارد دلار سلاحو رو به افغانستان داد و برگشت؟ چرا سلاح‌هاش خارج نکرد قبل برگشتن؟ 80 میلیارد دلار اسلحه رو گذاشت دست طالبان اومد بیرون. چرا؟ میداد به پاکستان آمریکایی خارج میکرد اگرم خواست خارج کنه میذاد به پاکستان. چه برنامه‌ای برای افغانستان چیت بود؟ این منطقه شرق ایران یعنی فاصله بین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 تقریبا 400 ساله در افغانستان هرکی سر کار اومده پشتون بوده چه حامد کرزای آمریکایی و اشرف غنی آمریکایی چه طالبان زد آمریکایی انگار که دکومت مال پشتون هست خیلی هم ظلم میکنن به بقیه اقوام این نبوده به محض این که اومدن شوری کن از روی پول افغانستان عبارت فارسی رو حصف گردن از روی سردار دانشگاه حذف حصف گردن. مرضشون مرزشون رو ریختن خب اینجا یه جنگی در میگیره پسر احمد شما مسعود احمد مسعود دایداره میگه به تاجیک ها داره ظلم میشه خود خب جمهوره اسلامی ایران مذهبی با هزاره هاست فرهنگی با تاجیک هاست ها افغانستان همسایه ما ست ساله پیش با هم یه کشور بودیم خب این کار سخته برنامه چی بود؟ برنامه این بود که اشرفقنی امریکایی قبل از رفتنش جنگ داخلی رو راه بندازه شیعیان رو بیاره پشت خودش یعنی پشتونای های امریکایی تاجیک ها و هزاره یتیم خدمت شما هستند طرفدار های طالبان که خیلی جنگ آزمودن سال ها جنگیدن اینا هم یتیم یک جنگ داخلی را بیفته خب آقای چین از اینجا که نمیتونه رد کنی چین اومده با جاده زمینی وان رود وان بلت یک جاده کمربند داره راه دریایی رو دور میزنه اون عدد 80 درصد میخواد بیاره این طرف راه راهان بکشن گر رو گر آقا قطارهایی که طول بعضی از این آقا با واگوناش اون وسط چند تا لوکومتیف داره قطارهایی که اینو به 6 کیلومتر میرسه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 خب همون دریاییشو چیکار بکنیم پاکستان چون هند و چین با همدیگه رقابت دارن شدید پاکستان و هندم با هم دشمنن دیگه میدونید همیشه اختلافات مرزی دارن سر کشمیر رو هم می‌جنگن پاکستان به چین نزدیک شد چین گفت من 60 میلیارد دلار پول میارم اینجا سرمایه گذاری میکنم از طریق پاکستان از این بالا میکشونم میرم پایین بچم کلاهمو صادر کنم هند داره تجهیز میشه از نظر نظامی حتی در این دوتا جزیره آنزمان و نیکوبر این فارسی فارسیه ها نیکوبر یعنی ساحل خوب اینا رو سیاه های ایرانی است بزاشتن نورد ایرانی است بزاشتن وقتی میرفتن اصلا دریانورده مال ما ایرانی بوده فنونی داشتیم که کشتی همون جوری بلد بودیم بسازیم که تو باد مخالف میتونست حرکت کنه بازن اینا مهم بود اینجا رو الان آوردن چیکار کردن نیروی نظامی مستقر کردن پیمان نظامی الان هند یک از بزرگترین وارد کنند کننده‌های تسلیحات از اسرائیل دارن این برای تجهیز می‌کنن که بتونن جلوی چین رو چین باید بیاد از اینجا رد اینجا هم که دعواست الا ماشاءالله که از تنگه مالاگا رد نشه اینا اومدن چینی‌ها میخوان یک کانال بزنن کانال تایکرا نصف فکنن اینا از وسط اونجا رد بشن که نیازی به این تنگه نباشه آقا این اتفاق افتادن همانا تایلند کودت های نظامی شد ریخت به هم ببین الان من یه تحلیل دارم به شما میدم که خیلی از اتفاقات دنیا رو میتونی تو اون بذاری میگه آه این اینجا قرار میگه آه این پس این بود دلش چی بود برچه این نظامیشون دیبونه بودن این کودتا کودت ها کردن نمیگذاره هنکونگ ریخت به هم کنگ یعنی چی؟ یعنی چین جنوبی تو از اینجا آشوب شد. یک سال بعد عراق ریخت به هم که بهتون توضیح دادم. بعد حاج قاسم شهید چند سال بعد با ابو مهدی مهندس رو زدن اون برای چی بود؟ برای این تر. یکی از مهمترین ترهای ایناست. کانال خدمت شما میکنم بکنم عرب مد. من براتون چطورش میتونم پیدا کنم؟ برای شما خطرناک دیه چیزی سرچ کردیم قبلش میگم بالا.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 عکسش خوبیه خوب نشون میده برای این اتفاق کشورهای عربی باید با اسرائیل رفیق میشدن طرح چی بارک تره طرح ابراهیم یا معامله قر خب برای اینکه این اتفاق بیفته یه نفر است که نخواهد گذاشت که نه ایران سردار سلیمان باید هستش مثل اینکه میخوایم بیام افغانستان رو بگیریم 11 سپتامبر یه نفر از نخواهد گذاشت احمد شاموسود حذف میشه دو هفته قبلش نه مهمه این زمانها من الان برام یقینی نیست ایرانو در داخل می‌خوام بریزن به هم دوباره برای چی بخاطر اینکه همزمان با این اتفاقات یهو دوباره این بحث بچه‌شام مطرح شده که آها اینو نمی‌دونم من خلع میام میام برکنم خلعیتشو می‌خواد برکنه این توالی زمانها مهم است برای تحلیلگر گر. نه وقتی دشمن داریم کنیم تازه ماها به اطلاعات محرمانه دسترسی نداریم به مذاکرات پنهان دسترسی نداریم خیلی کار ماها سخت خدا شاده باید بشینیم رو همین اتفاقات رو، رو همین مسائل بمینا رو مرور بکنیم خب معامله قرن پس ایران مخالف اصلی است نخواهد گذاشت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 تو دل خانواده بین خوهر بردر دوا میشه روی گسلی هم دست میذارن که چیه؟ پابلیکه میگن چی؟ یعنی خیلی عمومیه الان میگن آه اینو میگنم مثلا گوشای آیفون قرار ریجیستری شدن فیلان به همان میگه این چند درصد دغدغه جامعه است یا میگه میگه که آقا مثلا بنزین هواپیما ها رو میخوان گرون کنن میگه کلن یه درصد مردم میرن سوار هواپیما متوجه اید اون یه درصد درست پول داران درست اون یه درصد رسانه داران درسته دادو بیدادشون بلنده اما دقدقی حقیقی کف جامعه نیست بنزینی که اگه دست بزنید دقدقی واقعی جامعه خوب، خب اینه نفوذ یعنی چی؟ نفوذ این که من بتونم تو تصمیم سازی شما دست ببرم تو دستگاه محاسباتی شما دست ببرم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 این سال بعدشه. او چرا باید غزره رو با خاک اکسان بکنه؟ به خاطر اینکه با یه راکت میشه این کوریدور و رو فاتحشو خون. او قبلش میخواد اونجا رو صاف کنه تا خیالش راحت شه. حزب الله لبنانو باید ببره بالای رودخانه لیتانی. یعنی اینجا که مرزه این رودخانه این شکلیه بره باله رودخانه اینجای که اینجایی که کوهستانی و محل نگهداری تسلیحات الله رو خیالش راحت بشه با خاک اکسان کنه بفرستش بالا قطنامه بیاد اجراب کنه اینجا رو بده دست از یو سازمان ملل خیالش راحت بشه به خاطری چی؟ به خاطر که بندر حیفا زیر موشکای و پهواده الله لبنانه حالان که هر روز داره لبنان اینجا داره اینجا رو میسیم خب من گفتم خیلی اینا زو ها جامعال اطراف این تحلیلها اینقدر من بخواید اصلا فقط تحلیل دینی راجع بین کنم من دوست دارم اینجا تحلیل اقتصادی کنم یه خورد شما بشکن این ساختاری یه خورده باستر ببینید فزور. خب یه سری ماجرا هنده مگه میشه هند همینطور طور الکی باشه آقای مودی ناندرا مودی 13 سال سرنخست وزیر سر استاندار ایالت گجرات بوده اینا گجراتین مثل الان دیدی نیست مملکت دست مشادیاس با اومدن ایشون ها قدرت گرفتن ایشون دو تا میرینی که آدم ضد مسلمان معروف به قاتل مسلمانها در گجرات کلی مسلمان کشت در زمان, خصوص در زمان ریاست این بر استان و ایالت حزبش بی جی پی بری بینید کیا میرسید به دو نفر که یکی و باز رحل گجراته آدانی گوتام آدانی این گوتام آدانی که هیچ دو داشت هم چند سال پیش دومه فرس کل جهان بود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 اتفاق که افتاده میگن آقا این نقش داشته نداشته سال 2006 بود به عنوان سروزی ریالت گجورات رفت اسرائیل دقیقا در جنگ 33 روزه و اون موقع موزه گیری کرد به نفع اسرائیلی ها تو جنگ 33 روزه که همه دنیا به نفع لبنانیام ها مثل الان گیری میکرد دو وقتی رفت اسرائیل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 زن یهودی که ازدواج کرد با تاجرای الماس در هند پای ها به شهر آنتروپ باز شد شهر الماس تجارت الماس آرام آرام 60 در درصد بازار اونجا افتاد دست و آقای یعنی یک ارتباطات خانوادگی بین مودی‌ها ها و ها و خیلی از این‌ها های دوگانه دارن یعنی تابعیت حد دقل این سه تا که بنیسه تو کشور هند انگلیس وقت چهارت کشور هند، انگلیس، بلژیک، اسرائیل خیلی هاشون تابعت دوگانه هند اسرائیلی دارن ما هفته اشتر زارت هم چیز داریم یه اقلیت یهودی داریم در هند زندگی می کنم و ازشون خیلی توپه دو کنم تجارت سنگ و الماس و این کارا قرداد های نظامی آنچنانی که هست به نناه هست بکنام ارتباطی که اماراتیا با مودی هم دارن همین جوریه یعنی یک کاری ترزی شده اومده جلو امروز میخوان ثمرهشو بچینن شما ریختی به هم همه جورا 7 اکتبر خیلی اتفاق مهمی بوده فلسطین ها چرا این کار کردن برید سخنرانی بایدون رو نگاه کنید میگه اگر 7 اکتبر اتفاق نمی‌افتاده بود دو ماه دیگه تمام بود همه چی ما عادی سازی بین اسرائیل و عرب ها رو اعلام میخواستیم بکنیم می‌خواستیم جشن بگیریم و با حذف فلسطین با حصف پروژه دو دولت یعنی تن داد فلسطین آقا اسرایل هم باشه ما هم باشیم دو تو دولت بشیم به همین هم تن ندادن و فلسطینی همین های صالح حال آروری که 70 روز بعد از 7 اکتبر در لبنان به شهادت رسوندنش رابط حماس با حزب الله بود این مصاحبه داره زمان, زمان. میگه اگر بخواید ما رو حذف بکنید ما بازیتونو با آتش میکشیم یعنی فلسطینیا مثل یحیی سنوار اینها آگاهانه این طرحو به هم ریختن گفتن نمیذاریم طرح عادی سازی رو انجام بدید الان عادی برای کشورهای عربی دیگه سم مهلک هیچ کس جرعت نداره کدوم اسرائیلی‌ها یعنی جرأت می‌کنه این کشور عربی سفر کنه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 تو این کانسکنس بعد شما حتما بتونید تحلیل بکنید و الا کلهتون پس مارو کس ادامه ماجرا چیه ادامه ماجرا برادر من عزیز من اینه که اینو گفتم ما از تر عادی سازی کوتاه نمیاییم مرگ یه بار شیبن یه بار یک بار برای همیشه باید کار محور مقاومت رو یکسره کنیم یعنی باید غزه رو کنیم لبنان رو کنیم بعدش سوریه و بعد ایران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 بازم همین ستو کشور از نظر ایدئولوژیک ایران ایران ایران میگن دوتا هیچ چی ندارن هیچ تهدید ایدولوژیک نیست اینا تهدید ایدئولوژیکن حالا نگاه کنید کل دنیا تنو کسایی که دارن فلسطین مد میکنه همینا یعنی هر کسی که ربطی داره به ایران عراق لبنان یمن و است ایران، باشه اشتراکین همه چی ایدولوژی تئوری. توری. داره میانی چی میگه؟ که عملا دیگه بدونید که حتی ها دیگه تقریباً کم آوردن تو این ماجرا چون از ایرانیا که پالسی نمی و شوتو شنگن دیگه کسی می رینه با اینا حرف بزنه که خب بره بشینه با اینا حرف بزنه درست تصمیم بگیره میگن ایران حذف بکنید. ها کدوم آدم عاقلی از دریا چیز عبور میده؟ رو پیاده کن اونجا دوباره سوار کشتی کن رد کن اون طرف دوباره چکار کن خوبی بیا از همین اینجا ایران زمینی برید میگن نه ما نمیخویم بری زیر بلیط ایران تو چین میخوای صادرات انجام بدی آفرین یا میایی با این کشور این کشورا چن اینا همه کشورهای ترک زبانه ترکیشون هم هیچ ربطی به هم ندارن یعنی شما هم با هم دیگه میشینن دور هم حرف میزنن از ترکیه همهشون چیز دارن مترجم دارن دیگه ما, ما متوجه نمیشیم میشیم, میشیم. گوشون نمیفهمین قضا هستانه چی چی میگن اون لالوای یا یه کلمه به گوش آشنا میاد اینجوری همونقدر که مثلا زبانهای هندو اروپایی مثلا به هم نزدیکن آره چه میدونم مادر مادر فادر پدر برادر برادر دختر دختر دوتر دتر همهش یه ریش هستی زبان هندو رو حالا ما میفهم از آلمانی ما میفهمیم که جلومون عرف بزنه حالی خورده مثلا بیشتر و نکته دیگه هم باز اینه که اینجا تقریبا 100 سال دوستان کار فرهنگی صورت گرفت یعنی چی؟ اینایت داشته باشید انگلیس آمد اینجا را ساخت هویت ترکی تزریق کرد برای چی؟ برای اینکه روسیه نتواند به آب‌های گرم خلیج فارس برسد. وصیت پتر کبیر این بود که اگر می‌خواهید روسیه رو نجات پیدا بکنید، ما از تو آب‌های سرد بد خارج مواد ما به آب‌های گرم خلیج فارس برای همین ایران بر روسا مهم بود. بیایید اینجا، راه در روی ما اینجاست. راه فرار ما اینجاست. اون‌ها هم فهمیده بودن، برای همین اومده بودن تو ایران مستقر شده بودن. انگلیس اومده بود کجا؟ جنوب ایران. روسیه شمال ایران گفت شمال ایران می‌خوایم به آبها نمی‌ذارم برسی تو جزایر کشتی آورده بود آدم آورده بود می گفت من نمی‌ذارم به خلیج فارس از قدیم این بودیم اومدن روی هویت ترکی کار کردن گفتن ما یه هویت مشترک داشتیم شروع کردن فرنگی چرت و پرت خیلی هاش مزخرفات همین الان مثلا مشاور اصلی آقای علیف خانم اسرائیلی به اسم برندا شفر برید فقط تو توییتر توتا این ادمو بخونید فضا دستتون میاد هیچ چی دیگه من نخواستم تحقیق ویژه‌تر بیت که و کداباش و کاراش و سفرهاش و نمیدونم چرا همین توییترش بخونید میفهمید اومدن کار کردن خب آقا شما میخواد از کشور مثلا ترک رد بشید خب اینجا بیادین این توی کرم از توی شمال ایران تو آذربایجان که ترکن رد شد این قصه ها چیه نه اینجا یه مسئله ای هست دقت کنید روس ها متوجه این نقشه انگلیسی ها شده بودن برای همین اومدن جهان ترک رو دوپارچه کردن اطریق کیا؟ آفرین ارمنی ها روس ها اومدن رو اون مسئله کار کردن چون میدونستن اینجا می‌خوان تنفسشون رو را خفشون کنن الان روسیه درگیر اکرا <تصفيق> تمرکزش برداشته شده از روغ افغاز دارن کار یه سره میکنن یک تیکار این تصویر تصویر خوبی نیست که کوریدور زنگزور رو من بهشون بخوام نشون بدم ببینم جای داریم زنگزور رو نشون بده میانی که فقط الان 20 کیلومترش بونده خب این تصویر خوبه. ببینید این جمهوری آزربایجانه این رنگ نبیرم. سبز بگیم چی چی بگیم بعد این تیکه نخجوان جدا افتاده این ایران این ترکیه این کوچولو رو این یه تیکه جا رو رزاخان داد به اتاتورک ترک و ترکیه تا نخجوان وست شد این دست ما بود مال ما بود اون اون ست سال پیش یه انگلیسی این ور سر کارو بردن انگلیسی ها یه رزاخانی این سر کارو بردن انگلیس اون طرفم اتاتورک سر کارو بردن این دوتا به هم دیگه بستن او نمیگه والا یه تیکه اون تا اون کوها به چه درد مخوره من بدم بره انگلیس با هم چپ نیفته تا اینجا وست شد الان اگر این به آزربایجان بچسبه تمامه از ترکیه عضو ناتو تا قزاقستان اینا وست شده من. اینجا دیگه کار نظامی شده دیگه کار به توپ و تان کنید شده فهمیده ما ای ایران داریم مقابله میکنیم تا قبلش خواب بودیم یعنی تا گلدرش نشه کار سفت و سخت نشه ما به خودمون نمیایم. پس مسئله زور اینه. یعنی رابطه ما با افغانستان دیگه چیه؟ ایرانو، چین قط این سه دشمن اصلی. با این اتفاق ایران و با رکشالا شد برای این اصلا تنفس ما راجع به 100 سال و یعنی سال آینده کشور داریم. اینا دونه دونه عضو ناتو خواهند شد. چی فکر کردی چون؟ تک تک عضو ناتو شد.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 باید دوباره برگردید به اون اصل خودتون خیلی عجیبه نادرن اینجور کار میکنن؟ ما موجود. پس چین اینطور؟ اینجا از ترکیه تا مرز چین فاصله افتاد یعنی اینطور این ستا شکستن بشکنن که ساده دشمن به هم نزیدش هر کدوم باید درگیری یه روسیه با اوکراین درگیر میشی با اتحادی اروپا با ناتو درگیر میشی با نوک پیکان اوکراین، ایران با کشورهای عربی منطقه درگیر میشی با نوک پیکان اسرائیل و چین با پیمانهای نظامی این دو این چیه؟ الان دارن مانور مشترک بین فیلیپینو، استرالیا و کره و ژاپن و تایوان و همین تایوانی که شما مسخرهش میکنید میگی چی است حالا تایوان در آستانه اتمی شدنه یعنی بعضی میگن بمب اتم هم داره پنهانی نخواست خواست علنی کنه به خاطر که چون می‌خواد از ما شتابی کنه چینی گفت اگه این کار بکنیم ما حمله میکنیم یا فلان خوب که کاراشون انجام دادن خوب که کاراشون انجام دادن بعد وارد میشنم. یکی از شرکت هایی که الان میدونی که ریسپردازنده تولید میکنه چشم در تایوان چین جرات حمله نداره. چون موتور خودش میتپایین خودش وارد کننده هست نه خودتون نمی چرا آوردن تایوان اونجا بیخ گوش چین توانمند کردن امریکایی تو این حوزه. یا بیخ گوش ما اماراتو الان میگه به امارات حمله کنیم بکنیم 80 درصد کالات از امارات بارد میکنیم حمله کن 80 درصد ارز تو به درهم گره خورده برو اینا تراحیه های کلانه داره صورت میگیره راه هست بله حالا همین همه بندر حیفا رو میبینید دوستان اینجا تمام و کمال در اختیار خانواده آقای آدانی قرار گرفته. نتانیو کل بندر رو نه یک و میلیارد دلار داد به آدانی. پس الان تو شک بزنی به حیفا به کی مشک زدی؟ به هند. به مودی. چیزی نیست ثروت آقای آدانی. هنگام آمدن مودی 7.8 میلیارد دلار بود. حمیص 4 سال پیش اون دواش برای برادر پیش اومد رسیدور به 150 میلیارد دلار. نقشی نداشت آقای مودی‌بند خدا. <تصفيق> تمام دور تا دور هند اینا همه بندره. تمام اینا بندره. همه اینا در اختیار خانواده آدانیا. همش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 بعد بینیم مثلا رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی ما بنده خود ما آقا این نیست نه تو تا از این فلانه بنده خودم تو خبر داری چی چی بچیه چیه تو تو بازی بزرگتری هستی حالا یه نکته چین و هند که تو شکمه همن و هند اینجوری با اسرائیله ما آمدیم بندر چابه دادیم به هندیا این وسط میشه پرتغال فروش ما ما نشون بدید ایبی نداره میخوای این بدی بگی نه شرقی نه غربی من بنادر خودم ها محکم بکنم از بفرستم بر بفرستم برای آسیای میانه باریکلا باشه فقط بفهم که این بندر چابهار تو تو پازلت دیه وقت داری زحمت میکشی تو بازار دشمن نباش بعد این هم فضا رو همینجوری چیز ببینید اقتصادی ببینید شهر نعوم تو همون کوریدور تعریف شده. شهر نئوم در موردش میدونید دیگه 500 میلیارد دلار این سازه‌ها رو می بینید اینا کار دست بشره. یه ساختمون دراز همینجا چند کیلومتری. قراره نمیدونم گارسناش ربات باشن و شهر هوشمند و اسمارت و نمیدونم لبه دریا و همه چیش ببینید. الان شروع کردن ساخت سازه سازاشونو. اینا دارن 500 میلیارد دلار اینجا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 پس لحت رو قرار بود این رهبر انقلاب توی نماز جمعه معروف نکته مهم میگو اینا میخوان اسرائیل تبدیل کنن به هاب کالا ده. درست قرار از اینجا تکنولوژی هوش مصنوعی چه چه چه چه همه این اتفاق انرژی سادر بشه کالا وارد بشه کالا سادر بشه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 چی چی میگی شرکت نشینا چی چی ان فاته سیلیکون ولیشون خوندی شرکت حوش هوش موزه هوش مصنوعی انرژی های پاک چه چه چه همین خود همین آقای آدانی بود یامبانی یا الان حضور ذهن ندارم سه میلیارد دلار تو این روزه انرژی های پاک سرمایه گذاری کرده هندی که زغال سنگ میسوزونن بزرگترین پالایشگاه جهان که روزی 600 هزار بشکه نفت میتونه پالایش بکنه مال آنبانیه نه همه چیشونو رو چیده بودن از ده سال بیس سال قبل داشتن برنامه روزی روزی که میخواستن این میور رو بچینن نتانی آن بره سازمان ملل بگید دو ماه بعدش کار تمام بشه هفت وقتر مثل یه توفانی ما درمی چی ریخ بهم و الان همین قصه پس تصور این که درگیری با اسرائیل تمام بشه بذا کنار حداقل سه سال چهار سال اینا دام پیدا خواهید اسرائیل برای وجودش داری می برای بودنش و نه تمامه دقیقا ما باید همینجوری به اسرائیل نگاه کنیم و اینجوری به جنگیم. و مردممونو هم همونو کنیم که نه اینکه هلا یکی لخ شد تو دانشگاه کل حواسا ها برون بر آه مید دفعه قبل نبود یارو تا میگرفتنش این برهنشون دفعه اول نی بود قبلا هم بوده‌شن یه اشتباهی آخشم میشد نه خیلی دیگه بولدشن چون تو دانشگاه بود ما با این کار ندارم اطلاعی هم ندارم هدفش چی بوده چی بوده میگم میگم بیمار روانی بوده نبود من اینا نمیدونم چون کیکی نی کی بیاد به آدم درست توضیح بده توی مملکت که یه رسانه‌ای به توضیح بده همون اول بیاد بگه این آدم اینه اینه اینه قصه شینه تمام بشه بره اجازه تحلیل تخیلی میدن بعد اما بودن موارد قبلی که اینجور برهنمی شدن دراغ مصرف میکردن بعد میگفتن حالا اون خوش نبود بعد اینا کیسه پناهندگی میشن دونه دونه از اون را سر در میرن یا خانمی بود تو ماجره دو سال پیش سال پیش توی چیز لخش و طولن جدید نیه داخل خارج دانشگاه هاروارد هم دارن چند تا تا تحقیق به خاطر فلسطین. اینجا واسخوشید کسی نمو جواب بده. آها حراست اینجوری گفته فلان دختره خودش های ضد نظامش هم بود. ما گفت چرت و پرت نگیدین خود شروع کرد. اومد با کلاسوفی فیلم گرفتن بعد یا فوش دادن فلان. جوری بهش حمله کردن. جوری بهش حمله کردن توییتشو کرد بدبخت اکتیو که ترسید. تهدید جانیش کردن توییتاشون هست. گفتن تیک پارت میکنیم. تو انقدر عقل نداری الان نباید بیا اینو بگی اینو باید بیا به مردم برسونه به گوش مردم برسونه جواد طبیعی نه, نه همین وظیفه‌تون معنا شما چیه من نوعی اگه رو گفت ما کار ندارم 100 تا دیگه من کار دارم میرم اونارو انجام میدم نگفت شده میرم دانشگاه با دانشگاه میچرخم میام شما میام کاری هم ندارم جلوی 10 نفر نشستن. ده 10000 نفر نشاستن این دستم من برمیدون دنیا باید حجت تمام کنم با خودم بگم خودم من این کار دستم برمیدون حتما این آقا که نمیگه این آرومه مردم حجت شرعی دارن حتما پاسخ دارن من اصلا دوست ندارم جای اونها باشم چون کارشون سخت این سخنان قبلی اینجا آدم سیست مونده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خدمت شما ارز بکنم که در مورد اوکراین هم دوستان همینه اکشراین هم پشت کل جنگش اقتصادیه. اصلش مال کار شرکت بلک راکه ما لاریفینگ که تصمیم لاریفینگ رئیس این شرکت یهودی صهیونیسته اونجا که اصلا واقعا از کره از آب کره گرفتن اگه تو سوالاتتون بود جواب میدم اگه سوالی چیزیت پاشید بپرسید سعی دارم بکنم تو موضوع باش که وقت بقیه گرفتنش در خدمتی بسم الله کره شمالی چه نقشه دارد کره شمالی همین الان شما نیست؟ سرباز کره شمالی دارن توکرامی جنگن راشن افتاده. اینا چه جوری بولش شدن؟ سر از اونجا پیدا کردن؟ رابه. یعنی چی؟ کره شمالی یه لولو خورخوره یه, یه دیوامه استراتژی مدمن کار برده فراوان داره. من کوتاه میگم ها. این خوش یه جلسه از کره شمالی. دقیقا دقیقاً دشمن وقتی شما رو تونست محاسبه کنه بسنجه دیگه ازت نمی‌ترسه. مثل یه رزمیکاری کاری که فن بلده. تو با چوبم بهش حمله کنی، او برای مقابله با چوبم راه بلده با چاقو هم عمله کنی راه بلده ما خیلی وقتی تو خیابون یه آدم تنومند رو میبینیم فلان مثلا فلام ا که بحثمون هم بشه از اون اونقدر نمیترسیم که یه دیوونه می یه دیوونه کج کل هم از بنده خدا داره مید از اون فرم چرا چون اون دیوون دیوونه است؟ چون معلومه چیکار کنه خب ترامپ می ترامپ دیوانه خزیی دوستش دیوانه نشون میده ببین خراب کاریش این دیون اون بود حاجغااصه میتون زد ببخش دیگه متوجه شدید؟ مادامی که شما نتونی یکشو تحلیل کن ترام دیوونه نی ترام خیلی تحلیلگره ترام کاسب تاجر تاجر که با دیوونه گیری پول لر بیاره زمانی که ما گلوبال هاکو زدیم ترام اومد هم گفت ممنون که هواپی ما بغلیشو نزدید یعنی <تصفيق> <تصفيق> به جنگم بجنگم کاسبه میشه با خودش حساب کتاب می‌کنیم بقول اینا بجنگن عربستان خور تنگه اورمز بسته شد امارات با خاک شد دیگه جنگ دیگه, دیگه شوخی نیست نف رف رو 300 دلار 400 دلار چه, دولار، چه خاکی باید تو سرمون کنیم می‌کنیم میشه 24 تا من گم یه ولش کن برای این استراتژی و بوده مدمن مرد دیوانه کاری که از رهبر انقلاب کردن موقع اسرائیل بود یه اسرائیل شروع کی حمجه کشتن بمبای سنگر شکن رو زمینو سروخ کردم خواست برس به اساس زمین چی نشوندی گفت من قاطی کردم دیوانه شدم رهبرم گفت بف... ما تو دیوانه نشدی تو خیلی محاسبه باباتم در میام، جوابتم میدم تازه میخوام بیام نماز جمعه، روزش هم اعلام میکنم، عقب ملت بیاین، مسئولینم دعوت میکنم، زودتر میام، نمازام طولانی میخونم، بعدشم قشنگ میشنم مصاحبد انجام میدم، face تو face advice میستم، بزن، دیدم زنی، مسئولینم میفرستم لبنان، اول عراق میفرستم، بعد رئیس مجلس قالیبافو میفرستم، بعد رئیس جمهورم میفرستم قطر، زدی، نزدی، بیا پایین بابات یعنی متوقفش کرد اینو نمیفهمن مردم هم. او دوستش رو همیش فضا بره مثل که مثل داعش داعش رو با دو هزار نفر آدم گرفت تو اش داره میاد 500000 نفر فرار کردن تو انداخته بودن دو هزار نفر ها برده بود چرا سر می بره ها و فلان میکنه ها او دوست داره اینجوری کره شمالی برای اینا این, های این قصد. برای چینی ها و برای روس این حکمو رو داره یعنی ببین چین به آمریکا فاصله شو از اینور کره زمین میشه نبینید از اونور ببینید <تصفيق> آره یه جای داریم این پسره دل دیوانه با... خودش هم دل, دل نشون میده دیگه یه موزه هایی که میکنه کار عجیب اصلا اخباری که شما در مورد چیز میشنوید چطوره در مورد کره شمالی آره عجیب غریب و نمیدونم صف فلاهاره اون الان هر پری روز آزمایش موشکه آنچنانی انجام دادن و اینا همش هم زمانیاش اینا اتفاقی نیست چین ازشون میخواد. کره شما دور تا دورش دریاست فقط از طریق چین راه داره. بیا. کره جنوبی که هیچ‌چی باش، دشمنشه. خب؟ بعد اینا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 نجوریا پس این راهبرد برای اینه دیگه بفهم از اگر امضای شاستی رو چه نقش پادشاه و اردن و اینکه پیشنهادی که به سوریه دادن که تسلیم بشید به اینها اگ چه صحبته الان ماجرا اردن رو... ها دردی خود آخر از زمانی میگفت تعلیمم خوب به زمینج اقتصادی چیزی بریم فردا میگن این اومد راجبه اخر تو چرا راجبه این روایت حرفزدی تو که نباید راجبه ما خودمون باید راجبه رو باید حرف میزدیم مثلا این حرفو نمیخوام بزنم خب تو پرسیدی باشه حالا همین آقایی که شما نمیشناستیدش حالا من جواب باید بدم خب ببینید ما تقریبا جنب وقت پیش از این سئنیوسا تویزه گفت ده تا داشته مونام 9 تا یا تا از حکام عربی صحیحو نیستن دو تاشون از بیخ یهودیان این دو که از بیخ یهودیان یکیشون سیسیه رئیس جمهور مصر و یکم ملک عبدالله اردنی من جفت اینا رو زدم زدم هم گذاشتم اسناد متقن مثلا برای مصر نامه حفاظت اطلاعات مصر رو گذاشتم که میگه سیسی یهودی منال ام از طریق مادرش مادرش از یهودا اهل مغرب بوده مراکش جزء جایی بوده که یهودی زیاد داشت تو افریقا در یهودیت هم نسب از مادر منتقل میشه سیسی خیلی به اینا خدمت کرد اولا تو اه... اعطای دو تا جزیره صنافی و تیران این تا جزیره اینجا این دو جزیره چقدر جای استراتژیکی قرار گرفتن اینا رو مصر داد به عربستان اینا همش در راسته تر ابراهیم بود خب در عوض این بندر ایلات هم فنی الان خورده دیگه این بندر ایلات داریم میخواه این از بندر ایلات دوستان میخوان یک کانال اینجوری بیکنن بیرن تا دریای مدیترانه که کانال سوئز رو دو دور بزنن الان کانال سویز دست اسرایلی نیست. این صحرای سینه مال مصره. کانال سویز کامل مال که مصری هست. این اگه این کار انجام بدن یه کانال میشه رفت کانال میشه برگشت. پول این هم آمریکا تقبل کرده. کانال بنگورین بیارمش ببینیدش. چشون رو جمالش روشن هم نه این از اینجا میخوام بزن. این بهتر. از اینجا میان میکشن ببین از کجا این نوار غزه است این نقطه چینه دقیقاً شمال نوار غزه حالا یه سوال اگه همین اندیش بشید از شمال شروع کردن هول دادن به سمت چی جمعیتو آفرین که این کانال در امان بمونه بعد شما بیا بگویین آماده نبودن برای این کار اگر 7 اکتبر اتفاق نمی‌افتاد بود 100 درصد اسرائیل بازم حمله نمی‌کرد 100 درصد منته با 100 درصد توانش اینجا با هفت درصد توانش می‌اومد خب این از این. اینجا مصر باید این کانال براش ناموس باشه. مخالفت کنه باهاش. چرا مصر رو دور می‌زنید؟ تو یکی از 14 تا نقطه استراتژیک جهان دست تو مصریه. کانال سویس تو نباید برای این رقیب درست بکنن. جالبه. اینو ما ایرانی‌ها کردیم اینو نمیذاریم حفر کنن. <تصفيق> خب. اون زمان هخامنشیان که رسیدیم دریا مدیترانه این الان که باز رسیدیم دریا مدیترانه مردم اگه نگاه راه بردی داشته باشن موقع خیلی چیزا را حتی بهتر تحمل میکنن بفهمن چه اتفاقاتی داره میفته خب این الان باید اما جالبه سی سی لالمونی گرفته علاوه بر اون از رود نیل دوستان از زیر از اینجا داره کانال آبی دارن حفر میکنن این دستگاه بی تی ام رفتن زیر زمین دارن سراخ میکنن که آب شیرین جنوب اسرائیل رو تحمیل کنن یعنی آب نیل رو سی سی داره انتقال میده به این طرح یکی دیگه از اینا اردن اردن دوباره این رو نقشه این رود اردن میریزه به دیتسی بحر المیت این میشه اردن رژیم صهیونیستی فلسطین اشغالی کشور خیلی باریکه. کشور هم با نگیم شهر میشه. به خود دیوانش شیم ما تو ایران نمیتونیم حرف بزنیم. یهو دیوان منتظرن یک کلمه کلمات گیر بدن. این گفت کشور اسرائیل رو به رسمیت شورای عالی امنیت ملی وزارت اطلاعات خب به قضا کجا هستید؟ به قرآن ببینیم چه خبره. یعنی <تصفيق> صدر احمد به اسرائیل این روانیا رو نمیدونیم چیکار کنیم خب.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 پولش رو میدین خب اینجا یه کمربند امنیتی دارن اینه یه ننه یهودی رو آوردن اینجا سر کار به کومت رسوندن <استنجاز> خب مادر شده آره نه <س variability> <تصفيق> <تصفيق> دوره دیده آره. دوره دیده یه پنتال بازی میکنه فیلماش هم بیرون داده خب عدتوار رو در میره بعد این کمربند امنیتی خیلی برای مهمه چرا؟ به خاطر اینکه کشور بعدی کیه؟ عراقه عراق دست جبه مقامته بالا سوریه دست جبه مقامته آقا ما خیلی رفتیم جلو صحبت صحبت یه نبار قزده رو نتونسته بگیره اینجا الان خطر شده سوریه که بریزه به هم میخواد بریزه به هم داره انه شروخگاری میکنه میاره اینجاها این تیکه های مرز و درعا و اینها رو همه رو میده دست این تروریست ها که مرزش حف اینجا این بلندی های جوولانه که میشنید مال سوریه یاست دست ایننس موننت چرا مهمه؟ چون اولا اشراف داری از اینجا تا دمشق 6 کیلومتر راهه با خمپره میشه دمشق رو زد خیلی نقطه بدی پایتخت سوریه ای ها. این یک دو بلندی های جولان تأمین کننده آب دریاچه آب شیرینره کل آبشون عملا دارن اینجا تأمین میکنن یه خطلوله تا جنوب کشیدن آوردنش بقیه‌اش هم با آبشیرین کنها کردن‌ها هم بدونید برای همین بلندی جلالم براشون حیثیتیه سوژه و جای خوبی هم هست یعنی حقشون سوریه یا حق نداریم حالا چی شده اردنیا عربستانیا گفتن ما باسازی باستانی سوریه رو میدیم ایرانی ها رو بنداز بیرون بارها دارن میگن سالها سر هم میگن تمومش بکنید دوباره پذیرفتن دیدی که بشار اسد تادی عرب دعوتش کردن استقبال گرمی ازش کردم میگن بنوز بیرون شما خودت رو بذار جای بشوراستی که شماله در دست رفته یه ادلبه که دست اوناست فکر کنید که از کشور خوزستان دست دشمن بشه مثلا شما شب خواب داری فشار اقتصادی شدید هم داری مردان دنبالت طلب میآله چیکار کنیم والله خوب اینو هم درگیر نشن بهتره فلان باشه خیلی یارو بادی مرام بذاره توی سیاست و تو روابط کشور دنبال این چیزا نباشید منافع همیشه تعیین میکنه این قصه است. پس اردن برای اینا حیصیتی خیلی مهم همین رو ریختن به هم بچه ها چش اردن هیچ وقت به هم نریخت. بهار عربی، بیداری اسلامی همه خاورمیانه شور از مصر میرفت، از تونس میاد بیرون از اردن به هم نریخت. در حالی که 65 درصد جمعیت اردن هم فلسطینیه. فلسطین تبارن. کشور دوم فلسطینیا در دنیا اردنه. جانم آ اینم سواله. آره. من خدمت شما عرض بکنم که اصلا صحبت سرین نیست شما وارد جنگ بشم یا نشیم. اسرائیل قطعا با ما وارد جنگ خواهد شد. یعنی این اینوری نگید خب اون ولت نمی‌کنه. شما الان می اصلاً همین الان ما این بعدی صادق سم که شکل بگیره که قطعا شکل خواهد به نظر من. من خبر مهربانه‌ای ندارم، تحلیلگرم. من برداشتم اینه چند تا نکته بگم. ممکنه 90 درصدش درست‌تر بدون که نشه نمی‌دونم. الله یک قطعا پاسخ میده ایران دو قطعا از بعد صادق دو محکمتر پاسخ میده سه متنوعه میزنه چهار مشارکت کننده ها گسترده ترن. یعنی فقط دفعه قبل سپا هوا زد این دفعه ارتش هم ممکنه بیاد هزبالله لبنه هم ممکنه بیاد چهار تو گفتم پنج یا حالی هم با امریکا میده این نیستش که فکر کنید بلانه چون اونا شروع کردن او وقتی تو رو زد.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 ما حمله کردیم او دنبال این ماجراست اسرائیلی که 6 روزه جنگ 6 روزه جنگ دو روزه جنگ سه و و روزه جنگ 51 روزه همیشه جنگش اینجوری بوده به چند ماه کشیده چی شد یه سال نمیداره جنگ اسرائیلی که فقط توی جبهه می جنگید چهجوری الان داره تو 6 هفت و با حزب درگیره با غزه درگیره یمن داره از حالی بهش میده چهجوری تو چند بدون براش مساله شده خواستن.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 شیمبتش اومد رسمان اعلام کرد که ما با کشور عربی و سنی باید یه ناتو تشکیل بدیم جلو ایران بایستیم این شد محور دوم پس محور ایک اوکرانی محور دوم اینجا محور سبوم گفتیم که با چین و اونا تایوان رو بردرگیش کنیم یعنی چاره نداریم دقیقاً درگیری، باشتاره. جان باشتاره. هیچ کار رو رو الان یه الان یه... ببینید من سؤالتون رو متوجه شدم اینه اصلا حرفم این نیستش که متوجه سؤالتون رو مثلا اصلا یه چیز قبل اینه من بخوای راجب رو حرف میزنم خب یه مسئله سخنه میشه اقتصادی حضورم من ادام اینه که زو ابعاد تحلیل میکنم خب نکتم اینه که اصلا فرض کن با اقتصاد بی اقتصاد اصلا هر چیزی یارو مادی به گیر داده شکم خوب کنید بله. چرا کاری نکردیم؟ بله. سال ولر رهبر انقلاب رهبر مملکت در سال رقتصادی هلام دیگه چیکار کنه؟ از از فروش نف خودتون را بی نیاز بکنید. خودتان برای تحریم آماده بکنید. اقتصاد را... اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی در مقابل تکانه های اقتصادی مقاوم شود. اسمش رو شکوهی خب که اسم گذاشته سال گذاشته همه رو گفته. برادر من وقتی ملت حال میکنن یه جور دیگه بدن شکارشون کنین مردم. اصلا بزن بیخ کلشون دوست دارن این کار کن مردم هشت سال دولت رو رو دیدن چشیدن با گوشت پوست و سخون لمس کردن خب حال کردن الان دوباره مثلا آیه هممتی بهت بشه وزیر اختوزان جان بله نظریم دیگه نظاریم خوبه که جاشو عوض بکنه من اینجام برای چی برای چی دار از روزی که اتفاق تو کشور تو این دو سه روز افت پش سرم جهیدم تو میزنم این کارت دستم برمیاد سخنرانی میکنیم و برای چی برای اینکه این اتفاق نیفته چاره دیگه ای داریم این واقعیت حالا بیایم یه چیز دیگه بگیم بیا از من اینو بپرس بگو پس دقیق ببین اینکه چرا این کارا رو نکردیم که مقصرش من تو نیستیم تو من که یه دانشجوام درسته؟ نه تو نماینده آموزش پرورشی، من نه, نه من نماینده حاکمیت اینجا. خب؟ من چهار تا پرونده خودم تو دادگاه جمهوری اسلامی دارم. <تصفح> درست شد؟ این از این. نکته دوم. نکته دوم. فکر می‌کنی پرونده برای چیه؟ چرا راجع به هلیکوپتر رئیس حرف زدی؟ چرا حرف زدی؟ من رو اینه چرا حرف زدی؟ پس اینم از این. من حرف هم طوزه میزنم یعنی فکر نکنن انجا بولم هم میشم میرم الان اصلا دمت کم زنگ میزنم الان 4 تا سردار و دکتر و حاج آقا بودم آقا همیشه از شما درد نکرد نه بابا باید بریم 60 تا جواب پس بدیم این جملت رو چرا گفتی کاری ندارن که خب یه روزی ما همین برش کنیم خب زنبالت سرمون درد بکن بیا اینو بگو بیا این سال خوبه بگو آقا الان با توجه به این شرایط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 بخ بسم الله ببین کجا رو میزنه هستی رو میزنه هستی رو بزنه یک سرتیفیکیت جهانی داده برای اینکه ایران به بمب اتم دست پیدا کنه کل دنیا دیگه این تهدیدام میاد یک کشور اتمی به پایگان یه سوالی از من دو سه سوال خود میخوام بپرسم اسمت چیه اسمت چیه آقا مشتاق ببین آقا مشتاق هیروشیما ناکازاکی بمب اتم خورد درسته میفرمون بله من برای که بعدن نمیشنم من. الان هیروشیما نکازده که خالی از سکن است ها نمیدونی جمعیت داره شهر پرنشاتی است. عجب پس جایی که بومبه هم خورده الان بعد بالاخره جنگ جهانی دوم بوده دیگه دو تو بمب انداخته. تو همون فرض کن سال آخر جنگ جهانی مثلا ماه آخر میزاره 145 زده باشه الان چند سال گذشته؟ سال, سال شقدر انا که شهرها جمعیت توی ساکن. اما چرنوبیل جمعیت داره؟ نه خیر این چی شده؟ اینجا نیروگاعتامی بوده که خورده این یه نکته آیا سر شوخی رو اینجوری وا کنن؟ تو منطقه هستی رو مثلا در بوشهر میزنن کلی این کشوره عربی؟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 فاتحه انرژی تو خاورمیانه میخوند نفت میشون دی بیشتی دلار در آستانه فست سرد خب حال اروپا پرسیدنیه حال خود آمریکا که بای که بزرگتران تولید کننده نفت هم بای که بزرگتران وارد کننده ها هم هست بس که اقتصادش بزرگه چین وقت آسفالت میشه آمریکا چین چینو از روسیه دارون بر بسلن تو ما را میگیم زدم ما وقت نمی کنیم داریم تعمیر میکنیم پالایشگاه رو مثلا نمیرسیم بهشون وقت ما یه خوردن بزا هزینه جنگ اونم بده ما اونم تا همون هم سر و تو بفهمه یه خورده بیشتر لخشه بیاد وسط برو خب اونا فکر نکن عین منو تو میشنن. تحلیل میکنن تازه با اطلاعات محرمانه میمونه کجا زیر ساخته نظامی همین الان همینه ما داریم فرودگاه اونا میزنیم اونا پارچه میزنن ما داریم اونا نباتیم میزنیم اونا میان پدافند میزنن این دفعه که از نظر من شخ بخواهند زد من برداشتم اینه حتی یه توییت معناداری هم زدم نوشتم خورمشه ها در پیش هست عکس موشک خورمشه گذاشتم موشک خورمشه شما ببینید آزمایشش رو نگاه کن چیکار کرده یک و تون سر جنگیشه زلزله درست میکنه خب اینا بسم الله میایی وصل بیان مسئله دیگه. یه بار دیگه این سایز این کشورها رو ما هم دیگه ما یه نگاهی بکنیم خب <تصفيق> بریم کی با کی میخواد درگیر بشه این میخواد ببین این میخواد این جغل جا چند جای اینجا رو میخواد بزنه این همش میخواد یه جا رو بزنه بعد لبنان هم هست عراق هم هست ه... یمن هم هست یمن که رسما بندر ایلات اینجا رو از کار انداخته کاملا غیر اقتصادی شده خب ببین اینه. تسعید جنگ اینه یعنی فاته میگه دو نفر رو گرفته بودن این آدم خورا انداختنش توی دیگه داشتن میپختنشون یکیشونش داشت, می داشت, می داشت, می داشت می کنه میسوخته آبش قلقل می کنه و ما رو داش داغ میشه داش میسوخه که میخندید او فلان فلانش تو میخندی میخندید یه <laughs> کاری کردم تو قزاشون خب اگر اینو بخونین کنن دیگهشون اینجوری میشه ضربه اقتصادی به ما مثلا میخوان چیکار کن ادراصب کن نه بریم،, بریم جلو نفت نفروشیم داداش نه که میفروختیم <laughs> چی سخت خواهد بود اما بدونید برای دنیا به مراتب سختر اینه اگه میخوان پیشو به تنشون بمالا ما مشکل چه؟ ناصری که؟ آقای اینچه هوایی حالا که هوایشو دارید من میگم شما ببونم باید هشت درصد از کجا آوردی هشت یه یه باقای سوار تاکسی شد یه آقای سوار تاکسی رو گفتش که چند گفت ده تو گفت چی پنج تا به این دوم من میگه زار بشداد. خب میگه ش درصد که ر ندادن اول اینکه 5 درصده <تصفح> یا در دستا اینجا ضعی گوشش. <تصفح> <تصفح> <تصفح> خب آره بخشی اینجوری بگیم قبول دا بحثا بخشی از همه حرفیشون دیگه بر... حرف ظریفم هم همین بود گفت بخشی از این کشور ممکنه با این سیاست‌ها ها همراه نبان خب بدش. برکی من بر من آقا شما جنگ آقا. آقا خب توی صبر کن آقا ن حرف درست داریم میزن دونه داریم جلو اسم چیه؟ آقایه بزرگی. خب چرا کوچیک بزرگی مایه؟ گوشکن آقاری. یه سال در ه سال دفاع مقد است در جنگ 8شت ساله چند نفر رفتن جنگیدن از جمعت 36 میلیونی. ۷ هزار ن، دو میلیون و صد هزار تا ما اعام داشتیم. اگر متوسط هر یه نفر سه بار اعاضام شده باشه ۷ هزار نفر از جمعیت۳ و 36 میلیونی رفتن جنگیدن اون جنگه ام دفعه اگر جنگی شود این تحلیل اونام دارن. اون عدد جمعیت دو برابر شده تقریبا دو مثلا یک و دو اون برابر شده. اون عدد چه برابر شده اون عدد پنج برابر شده این نیست که شما فکر میکنید. من انطقی با ریاضی صحبت بکنیم. اینا قبول دارم من جنگ. آره چرا دولار شد هفته هزار تون من مجرم پاشم تازه یه دکمه داره میزنه می کل چیز سیستمه <تصحق> پاشم؟ باش پا میشم ها <تصحق> <تصحق> از این میکروفون دارید نه میگم پانش تو رو خدا استدام نداریم بابا یعنی شما ما تحلیل کنم به من چه شما اون از <تصحق> دید خودش بورو بابا مو <سؤال> مشیل تو مشیل من نیست نه، خب اینا بن اون بیا جلوتارو بن که خدا بد جوری سیم کشی کردن اینا این این هم مال توه؟ این مال کیه <صدق> بذار یه نکته بهتون بگم ببین مسئله مساله, مسأله کشورینه ها خب خب گوش کنید میگه آقا این بحث اقتصادی و معاشات حرف فلسفه ما بالاخره 7 میلیون جمعیت داره خب یک میلیون بیکار خیلی عدد بزرگه یک میلیون بیکار 7 میلیون دقت کن نصفش رو بذار پیرمر پیرزنا و بچه ها اصن میونه چقدر 3 و نیم میلیون بیکار از 3 تا 4 میلیون چرا دنبال وارد جنگ شده؟ آتش باس رو تموم کنه بپذیره نه مسئله مسئله بودن یا نبودن یک کشور است بر از دیدگاه و نکش کشوران برای خودشون یعنی دیگه ما اشغالیه، درست شد؟ این باید حل بشه مسئله اقتصاد ما تحریم هست هر گو تحریمیس هر فا مفصل بیسواده در تردید نشده است خب یا مرز داره یا کاسه تحریم باقله آش آقا قرآنی خب ببین بچه‌ها تورم تورم پدیده ای کنید تورم یه که ناشی از چند تا اتفاق این اگر درست تحلیل بشه ما کشورمون زمانی که آشا حسن آقا دولت رو تحویل گرفت جزء هجدهمین اقتصاد جهان بودیم خب یعنی پول تو کشور ما کم نیست هست پول زیاده به خاطر تحریمایی که از اول انقلابم بودیم عملا تحریما اینجوری نبود که مثلا نابود کنه یه چی فلج کنه شلوپل کنه اثر داشته آیه که بگنه واقعا حرفی بیخود بگه اثر نداشته یه مسئلهی داری شما اسم کسری بودجه این کسری بودجه اسم لارمان رایم دار دیگه این کسری بودجه یعنی دولت سادهش اینه دخلش از خرجش بیشتره میاد چجوری جوبلان میکنه؟ خلق پول میکنه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 همه دارن عدد که خب گذشته چیز مختلف دلیل مختلفی داره یه بخش کوتاه توضیح میدم بهتون چیه اینجا من عامل اصلی رو دو تا چیز میتونم یک تحریم دو بانک ها اینجا حرف منو تو در میاد وسات منو تو چکار کنی بالاخره تو یه بچه معلمی که میخوای معلم بشی خب یعنی خانوادگی فرهنگ خانواده فرنگی هستی میخوای چکار کنی این خلق پول منجر به تورم میشه. یه چیز واضحیه شما پولی رو تولید میکنید؟ پشوان نداره. پشوان نداری یعنی چی؟ یعنی نگاه کن گوش کن. اینا این بخشش فکر نکن من ریاضی دارم مثلا چیز پیچیده میخوام میگم آسونه میفهمید. من استاد اینم که هر چیز رو بر کسی بفهمونم. نگران نباشید. معلم که معلم تاریخی تو اینجا موسیقی. زبان خوب چی؟ چیز تعتیلی تو نیست. <تصفح> نه تو این بحثای ریاضی میگم، خب؟ MV مساوی PV این ام حجم پول کشوره حجم نقدینگی 20 سرعت گردش پوله گوش کنید این دو تا هم چی اینا میزان و تعداد کالا زب در قیمتشون صد هزار تومن پول دارم این صد هزار تومن تو, تو بالاش مادر بزرگه زیر سرشه یعنی که نه وجود نداره با این میتونی بری چند تا بستنی ده هزار تومنی بخری؟ دیگه از این ساده تری میشه گفت خب ده تا ده هزار تومنی تا هزار تومانی، هزار تا صد تومانی، هیچ فرقی؟ نداره سد هزار سرعت گردش گردشپول تقریبا ثابته بچه ها برم میگم وی بار گردش گردشپول به این سادهگاه تقریباً مسته شبه گردش گردشپول تغییر میکنه خرید و فروش چی میشه. زیاد میشه. و جالب همم رازی هم جز کارمندا چرا؟ چون بیرون چرخه گردش پوله. یه حقوق ثابته با اونام عیدی میدن که اون چی بشه؟ تا حدودی جبرانش خب یعنی اینجا نگاه کن من اگه سرعت گردش پول سفر کنم که انعوت این کشور پول وجود نداره گفتم مادر بزرگی بذار تو متکاش یا بیام به جایی که پول شما رو زیاد کنم مثلا ده میلیون دارم به شما حقوق میدم مثلا به جای که بیام حقوقتون رو بیست میلیون کنم سرعت گردش پول تو شما رو زب در دو بکنم هیچ فرقی نداره بیست زب داره یک یا ده زب داره دو همین کارم میکنن کشورها این کارم میکنن. حالا این پول این, عرض، این بخش پولیه این خرج چی میشه؟ خیلی ماهامی اینی که دارم بهت میگم نصف مسئول نما نمیدونه. چرا چون باشون جلسه دارم وقتی میون من انقد اینو بر اینا توضیح دادم دیگه فولم <تصفيق> خب خوب نهایت داشته باشید این خرجه چی میشه با این میزان پول چه تعداد میریم کالا و خدمات می‌خریم کالا و خدمات با چه قیمتی با چه قیمتی میشه سرعت گردش پول خوردی بیشتر توضیح بدی چه جوری بین ما میره آره می آقا بقالی داره اون یکی مثلا موفروشی داره اون یکی نونفروغ است که شما میفرمودی این پول میدیم دست می‌گیم پولا نگه نداره. سالی یه بار گوش میخریدی دو بار گوش بخر. این گوش می‌خره. میگم پولا نگه نداره. برو از بقالیس اون خرید کن. میره. اونم دوباره دو میاد از همین خود آدم میخوام خرید میکن. چی می چی میشه؟ پولش دوباره برگشت تو دو جیبش. منتها صاب دو کیلو گوشته. چی اینجا کم میاد؟ کالاها، میزان کالا و خدمات. اینا نگه دارید یعنی باگ این قصه این دیگه، اگر تو به دریای کالا وصل باشی، اشکالی نداره. یه مثال بزنم از صورت گردش پول یه نفر تو این چرخه گردش پول اضافه شد آب با، بی بی, بی بی سی همین جوری میامد تا برنگشت دوباره به آ درسته کی بود اسنپیه تغییر به وجود اومد نه یه میلیون رفتن سر کار اصلا تو اقتصادها شما خیلی دنبالی نبشه تو بخش تولیدی برای شغل فرض کنید فر... قبلنها ما تاکسی می میگرفتیم اما کمتر خیلی بیشتر شده. ذریبش رفت بیشتر بخش از سبد خانوار شد. یه میلیون رفتن سر کار. اون کیه؟ اون همون کسی که میره بقالی خرید میکنه. پول پس میده به همون بقاله. صبح بقاله خرید پول دخل و شب خالی کرده رفته بزنش پول داده گفته فردا میخوام برم خونه خواهرم. پول داده به اسنپی اسنپی بود بعد ماده از اونم دست هم بقاله خرید کرده. این دوره برمیگرده. این اون فهمیه که باید داشته باشن. ببین یک تاکسی اینترنتی یوی انقدر شغل به وجود بیاره. اوکی بریم اینجا. این جای. این بر مهمه. این تعداده، یا تعداد کالاها رو میبریم بالا این اینو میارم پایین بچه ها، میخوام بزرگتر بنوم. فارسی همین نوسم کالا قیمتشون. یا تعداد کالاها رو این بر رفته بالا دیگه هزینه پول کشور داره میره بالا خلق نقده نگی میکنه. درسته این برای تصاوی بره بالا این تره تصاوی باید برود؟ اسمش تصاوی لا خب.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 پس 5 میلیارد دلار من نفت دادم 5 میلیارد دلار تو خارج اینجا خارجه شار شد بانک خارجه این طرف این معادل 5 میلیارد دلار هر چقدر دوست داشتم قبلش اینو بگم میام اینجا ریال چاپ میکنن باد عربستانم ریاله حجم نقدینگی رو چیکار میکنم میبرم بالا وقتی بردم بالا این طرفم مابازاش به همون خارجه میگم داداش از همون آلمان پولا رو وردار به بفرست بیاد کالاها رو اینور میبرم بالا تصاوی برگره آقا رفتيه بوده عربستان یه نوشابه هنو انقدر توونه برادر اینقدر ریاله عربستان اینقا الان عراق عراق درگیر جنگ فلان به همان تورمش اینجوری که ما تورم داریم نداره چرا وارد کنن است یعنی تو ما به ازا هر چقدر میخوای ای دقت کنی همیشه حسن آقا روحانی هم قبلیا هم بعدیا خیلی دنبال چی بودن وزارت بازرگانی که چیکار کنن؟ کالا وارد کنن چی بشه؟ یا ۶ میلیارد دلار پول داشتیم تو کره میگفتن گفتفتن همش رو بهتون یخچال بدیم <تصفيق> همه رو سامسونگ داخل پاکت بذاریم بهتون بدیم <تصفيق> همه تلویزیون کنیم بدیم بیا تو <تصفيق> اینه دیگه کالا وقتی وارد کن یه را دیگه هم از تولید کنی خودت تولیدم اینجا یه حرف نکته ای هست اینجا خش پدر سخته بازی در میارن، این وریا. چیگار میکنن؟ اصلا مگی میشه کشور همه چه تولید کنه؟ بزرگترین تولید کننده های دنیا یعنی چین و آمریکا، بزرگترین وارد کننده های دنیا آباریکالله این کالا دوستان از مرحله ای که از ای اینه ای ای ای ای خوب دقت کنید هیچ اینجوری بهتون نخواهن گفت یعنی راحت همه چیز سرکرم من جامعه و دارم محصال اقتصادی رو همه, ف... همه فهم میکنم کالا رو A میگیری روش کار میکنی میشه B با C قاتیش میکنی مثلا میشه D همینجیری میری جلو شهر شد که ماشین که کار نمی کنه چیکار کرد؟ انداخت دور وگه نه دوباره میاد تو دست رست خب <تصفح> دوباره پدرمون در میره خدمتتون عرض بکنم که این A ای میشه B C داخلش کنیم مثلا میشه D همینجیری میری جلو هنر تو اینه به جای این که بیه تا زد به جان که بیای زد وارد کنی یا ایکس و وای وارد کنی بیا ای و بی وارد کن بذار نیروی خودت روش کار بکنه که بره سر کار اینه الان جمهوری اسلامی ایران 97 درصد داروهاش خودش تولید میکنه میدونستین؟ خیلی مهمه 70 درصد ماده اولیه وارداتی از هند اما کسی چیزی نمیگه میگه ماده است همون که چین از ما نفت وارد میکنه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 چه میگم تحریم اثر دارد اگه گفت ندارد چرت میگه؟ برای اره این هرکی گفت چیکار باید میکنی؟ میای این طرف ریال رو چاپ میکنی اینو رو میبری بالا از اون عقدینگیر میبری بالا خلق پول میکنی اون طرف کالای وارد نکردی ارزش پول ملیت سقوط میکنه تولید کالا در ایران به صرفه میشه در ویژگی کشور کشوره چرا, چ... چرا چین ارزش پولش رو پایین تر نگه میدار برای اینکه مزیت صادراتیش نسبت به کالای خارجی همشه برقرار بمونه و این میشه که یهوی سفر به ایران مغرور به صرفه میشه. کلی توریست میره میگن آقا با 100 دلار میری ایران میچاره برمیگرده مثلا. متوجه شدید؟ انقدر این اتفاق میفته که باز دوباره قیمت ها چی بشه؟ اقتصاد خودش متعادل میکنه. همونی که خدمت شما عرض میکنم میگن به عنوان دست پنهان بازار. حالا یه سوال مهم اینجا آیا ما هیچی نمیتونیم سادر کنم که دو ملیونو باشی نفت تو دل تمام این تحریم ها و جنگ ها و دیگه هر کاری میخواستنم اومن کردن مسئله دیگه الان برادرم تحریم نیست یه چی دیگه این توه اون کجاست؟ اینه من این مجبورم حلقه رو پاکش کنم چیزی نمیده ما اینو پاک کنیم دستانگاه هزی هستشون تا این حلقه رو پا... کامل کنم الان دوزاره شریف میافته. که این دغدغه که داریه دغدغه خوبیه خب یه وقت معلمی شما میری سر کلاس بچه های مردم پوپولیستی نشه فرق من نوعی شما نوعی با اون کسی که تو خیابانه یعنی که ما اگر انتقاد میکنیم راهکار هم میدیم عاشق کشورمونیم نقدم داریم خب راهکار هم میدیم این تورمه میاد صفره خانوار رو کوچیک میکنه آره دیگه ده میلیونش همه چی گرون شده ده میلیونش دیگه مادر 5 میلیون پارسال سال میارزه اینجوری مثلا مادل 7 میلیون پارسال سال میارزه. گوشت گرون تر شده پارسال سال میتونه مثلا چهار کلو گوشت بخر الان میتونه دو کلو گوشت بخره صفر خانوار که خوششو فشخار مادر شروع میشه میشه کنشگری اجتماعی اجتماعی سیاسی همکاری شما داری میکنی چه وضعه شما گوشت ف دولار افتاده این که زیاد شد حاکمیت پاسخ میخواد بده آقا باید جواب بدیم مردم ناراضیان انتخابات شرکت نمی کنن. مشارکت اومده زیر پنجاه درصد این چه بزشه ما سال دیگه شورای شهر داریم اون سال دیگه مجلس داریم اون سال دیگه فلان داریم چیکار کنیم؟ آقا بنزین ریخته به هم اینجا باید, باید جو... بیاییم چیکار کنم به مردم برسیم چیگاه میکنه؟ میاست سیاست های انجام میده در پیش میده سیاست های چی؟ پول خرج میکنه دولت میگه حقوق ها رو ببرید بالا که بتونه دوباره 4 کلو گوشت بخره یارانه ها رو ببرید مالیات های اونجایی که نارد شدن یه خود بیارید هاین ها یا مالیات ها رو بالا نبرید هر چیزی از طریق کسری بوجه <تص>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 من به میزان حجم نقدی نگه کله کشور دارم نگاه میکنم حالا ببینید چی بوده میتونید ضرب و تقسیم برمان تو چی میخونی؟ مالم چه میشه؟ خوبی دیگه تو خوب... اصل جنسی خب موبایل تو در بیار ضرب و تقسیمش تو باید انجام میداره که اینجور شد خیلی کم شما چی جوری انتظاره؟ خیلی اثر مامینی هست بگم چرا؟ مثلا حق نداریم چرا؟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 100 میلیون پول داشت باشه چی میگی میگه, میگه سری برو خرج کن بعد یه یا طلایی بخری یه چه تیکه طلا رو نمیدونم مفتول بخر نمیدم طلای مستعمل بخره برای سرمایه‌گذاری برو یه جنسی بخر یه چیزی جز ریال این نتیجه چیه نتیجه پس زدن ریال نچه‌ این سیاستای غلطه ریال رو بی اعتبار کردن مردم دوستان بهش دارن بعد میگه آخ این مردومی ای که رفتن الان مثلا یه تیکر رفته بعد بخ مثلا پنجمین پول داشت که طلا خریدار بگیم آ این مکرره این ظلم به اون ادمه ارزش پولش داره میشه توی خونه داری خونه 5 میلیارد میشه 10 میلیارد اون کل همین 100 میلیونش میخواد بشه 50 میلیون دیوونه است بازنشسته شده بدبخ موقع بازنشستگیش 150 میلیون پول دادن چیکارش میکنه خب منطقی نگاه کن 10 تا لاستیک فروشن با همدیگه نفری 10 حلقه لاستیک خریدن برای میدونن ریالش میخواد بی ارزش بشه رفته خریدن ندزدیدن که رفتن خردن با هم دیگه سوله گرفتن نگهدارن میریزن اون تو رو اونجا میگیرم یا آو ما محتکرین رو پیدا کردیم میگه بابا اون مال تقی که مال نقی اون که مال شهرام اون که برام اون کدوم تو محتکر ده حلقه مال ده حلقه مالونه خب من بزن پس ادامه نمیم خیلی مهمه اینا را اگه میذاشتن ما میبیم تلویزیون بگیم خودشون هم نمیدن درست بگن مردم متوجه بشن چی شد اگر یه سوال داریم اینا کسری بودجه نداشته باشن چی میشه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 خودا سوالینه چند تا بانک وام دادن برای خلق مسکن خب برای خلق کن چقدر نیاز داشتن به واردات تقریبا هیچ کارگر مفت که داری جوان بیکار هیچ ببین ما الان ایران ارزون ترین کارگر دنیاست گوش کنید فقط یک کشور از ما کارگرش ارزان تره افغانستانی است که مسئلهش مسئله امنیته دیگه ما ندونیم اینجا دیگه اختصاص یعنی میخوام بگم کارگر ارزون هم تو همین بندگان خدا رو چی داری سیمان داری زمین اله ماشالله داری کمبود مسکن داری برچه نمی نمیسازی اینو فهمیدید به منم بگید ببینید وزیر حالا اینا برای ما شر میشه اینا بعضیشون رفیقای ما گوش کنید من اینا برای شما اینا برای محاسبه کردم وزیعه که وزرا اومدیشون صحبت کرد گفت ما برای این که قیمت مسکن رو بیاریم پایین میخوایم سیمان رو از تو بورس بور کو خب سیمان آسو بورس بکشیم بیرون بعد چیکار کنیم دستوری قیمت سیمان رو بیاریم پایین که یکی از کالاهایی که قیمت مسکن رو تشکیل میده حد چه بشه قیمت خونه رو بیاریم پایین خدا پدر تو مرزه بریم ببینیم یه خونه 100 متری میخوایم بسازیم مسکن مهر خوب مثلا مسکن ایکس مثلا هر متر ها هر متر مربع سه پاکت سیمان میبره هر پاکت پنجاه هزار تومن میشه صد و پنجا هزار تومن سک خود جهنم و زرد هزار تومن صد مترش میشه چقدر؟ بیست میلیون تومان. متری ده هزار متری ده میلیون تومن هم پول ساخته بیست میلیون نسبت به یک میلیارد. دو درصد؟ یعنی شما قیمت سیمان رو سفر کنی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 این معلوم بود خودش یه نفر بوده دیگه اینو فکر دو نفرن صد درصد این که رفته شده 50 درصد طرفتش هم یه دونه بوده انگار چون درصد درصد در تعطیل خب این یه مثال که هیچ نیازی به کالای بیرون ندارم یه مثال خوب براتون میزنم که خوب متوجه روغن ماشین رو ببینید موتور ماشین رو ببینید به میزانی که روغن اگر اضافه ریختی تو شالاب شلوب کرد یعنی چی رو اگر خشک کار کرد یعنی روکود هر چقدر روغن این باید تناسب داشته داشتهشه اگر روغن رو اضافه کردی در عوضش اقتصاد چیکار کردی موتور رو چی بزرگتر کردی فرقی نمیکن مردم هم خونه دار کرد. این, این همجره ادامه داره داره می چرخه چهار سال چهار سال شد یه سال و نیم دولوت قبلی اومد رو دو،, دو سال دو سال و نیم الان دوبار افتاد. الان کهم افتم... یکی دیگهتون من میان گوگل کنید اونیکی که بر اون تقسیم کنه آقاری شما مثلا دست به گوشیتون کیا خوبه همه تون بنویس هزی و نقدینگیه کشور 1403 من میدونم و میخوام خودتون بزنید بشنید بگی چقدر 9000 میخوام معادله پیچیده رو بگم تو حل بکنید یه انتگرال دوگانه باید حل کنی. خب ترمکه خب گوش کنید هزار و بچه چارصد یا هفتاد ما میگیم شست جهن نمازر میگیم به نفعون بری باشه چارصد همت حجم نقدینگی کشور سال 92 بود که احمدی نژاد دولت رو تعدید داد برای فیق شما دلار چقدر بود؟ سه و پومسد. تقریباً این حجم نقدینگی که رفته بالا این طرف تولیدی شکل بگید نگرفته پس عملا همش رفته برای دو فرار سرمایه هم داشتیم که با کاهش نرخ دلار تقریبا می شه اونا هم با هم چشپوشی کرد خیلی سادهش کن نتا سنتیلر به خدا سوم ابتدایی طرفین وسط این قرار بکنی خب الان حجم نگیر رو ایشون فهم شده 9000 9000 ضرب در 3500 کن تقسیم بر 470 بکن دیگه <تص> با هم تقلب میکنی؟ نمید. بچه کجایی؟ کجاش؟ با شما که سرتون تو حسابه 67 هزار تومن قیمت دلار. خب اینکه من نگفتم اقتصاد نربطی به امریکا داره اینا که بیخوب دیان داره 10 درست داره 20 درصد اینجوری نیست حالا این نکته از این بالاترم میره بله گوش کنید چون یک چیزی رو اینجا ما لحاظ نکردیم چون خواستیم سادهش کنیم همه بفهمن این چیزو لحاظ اونم چیه اونم اینه که عزیز دل من ما فرار سرمایه داریم یعنی این مهمترین مسئله است بچه‌ها این مهم این عمر زدی که نه هرچی گفتم مثلا بریزی دور اینو نگا الان دارن میگن 250 هزار میلیارد تومان یعنی 250 تام جایی داره بهین اضافه میشه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 چه جوری خلق کردن این حساب دارایی بانک دارایی بدهی بانک دار سپرده من شما بدهی برای بانک چون مال مائه اونجا قرض بهشتیم میشه بدهیش داراییشه زمینش ملک شعبهشه اسمش چی بود بنگاهداری بانک ها بنگاهداری نکنن راهبرمون برای چی میرید بنگاهداری میکنید یکی از دارایش یه دارایی دیگهش وامه میدونستید. بانک ها هرچی وام بدن دارایشون رو چکار کردن؟ چون بده. بدهی مال ماست که رفتی وام گرفتیم. اینجا بانک با ها یه حرکت میزن در هر دل کلاسیکو میان چیکار میکنن؟ وام میدن به شرکت آ که مال خودشونه؟ میگن بود دوباره زمین بخر میگن زمین نمیتون بخریم دیگه شرکتشون میره میخره خلق نقدینگی یکی کردن این رفت بالا قیمت رو برد بالا. ارزش اسمی خونه این خونه که رفته با خریده بود ده میلیارد میشه چقدر؟ 20 میلیارد دیگه این 10 میلیارد وامی که بهش داده بود بعد دوازده میلیارد پاس کنه دیگه میاد پس میده 8 میلیارد میزنن به بدن. ارزش شد خیلی شد. حسابداریش هم درسته وام داد 10 میلیارد درست شد. دو میلیاردم سود می‌خوایم بگیریم. جهنم و ضرر چیه؟ اش که اینقدر میلیارد سود میده.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 برای همین دقت کنی همه اداره های بانک دارن برخورشون. برای خوبشون برای همین دقت بکنی اندازه سوپرمارکتی ما شعبه بانک داریم اصلا لازمه بانک داری اینترنتی بچیه آخرین بار خدا شهاده من آبر بانک هم گم شد رفتم بانک کاری نداشتم کار تابار بانک هم گم شد رفتم کار تابار بانک هم آبر بانک نه. خب متوجه شدید کاری که بعد بکنیم چیه یک چیزی بیرون از این حلقه وارد اقتصاد اگر نکنیم اینجا هم بگم دعوی اینا چی هستیگه این آو, او نیبرالا هاو ریختن بجونه نه او کلمانیستا دیوونبازی هایی که شما دارید میشته ما دو گروه هن که کشور رو به باد دادن همه جا کشور رو به باد دادن خب اونا این دوتا گروه پرفوسور نه. اینا اینا تحلیلشون اقتصادیه اینا اجتماعی هم بریم این چی میگه میگه آقا کسری بودجه داری پول چاپ نکن لامصب بیا چیکار کنم پس بیا آفرین این کارو کن بگو افزایش مالیات برو این وریا داد زدن کنه شه داد وای مردم فلان شدن دارید تا فقط از بخش تولیدی وام میگیری چیز مالیات میگه افزایش حامل های انرژی بنزین آو جی با زور بو خزه آه ای مردم امت برمشن آبان 98 آوزر 73 ندم 69 هزار ده, ده همینجوری از این ما داریم خب همینجوری میریزن توشیکم هم دیگه دیگه چه خاک تو سرمون کنیم برجام میتونیم بیدون پول بیاریم اه همینه خب برای همینه نگاه کن گوش کنید چه چه آقای روحانی چه مرحوم رئیسی چه باغر قالباف چه مسعود پزشکیان همه میگفتن بر جا چون پول کهیس استادی اصلا خب <تصفح> <تصفح> چی نمیگفت اومین چی میگه میگه من میدونم پول را نخواهنداد برای چی برم سر درد میکنم میرم از بیخین را درست میکنم که ببینی وابستگی نداشت اون حرفشون اینه چقدر این واقع بینا نه اون مرحل دوم سه بریم وام بگیم از IMF میگه با پول خودمون اون نمیدن. حالف میگم تو کورس میبی یخچال برداوبر یخچال نمیخوام یخچال اون زده دیگه گفتیم کالا از ای بگیری هر چی زودتر بگیری بهتره خوده دوشور یخچال بگیرم چیکارش کنم بکنم تو نایلون به اسم شرکت داخلی بفرشم کل ارزش کاری که شما کردید ارزش نایلون <تصفح> خوب اینه ببین بفهمیم چی شده بعد نقد کن اشکال نداره نقد خوبه بدونید من رایفی بود اگه سخنران شدم تحلیلگر شدم تو این جامعه دنبال سوالات خودم بودم به قران رسیدم تو خودم خواستم برطرف کنم. شبه بر کنم. میکنم که بر خودم بر میشه بعد میدم یه رو مذهبیه تا تش میرفتم بنا می شما هم اقتصادی اقتصاد میشوندم گفتم بیا من بگو خب ل خدا آال با شد بم بعد نبود میفهمیدم چی میگم من فقط بالا ه ده تا جلسه یا 6ش ساعته فقط وزه نقدگی گذاشتیم تو اقتصاد دکت های نقدگی ما تو دفتر ما اراده رفت مخالفت کردیم با تمام گروهان هستیم از طیف های سساامین بگیری تا ات بهبر را خب با همه نشستیم از صادقل حسینی حرفا چه شنیدیم تا اقتصاددانه مجموع تشخیص که همشون طرفدار طرف داره خب من حرفشو نشتم زینف نیستم نه بابام بانک داره نه خودم وامی گرفتم برید ببینم من رایفو کجا وام گرفتم نخواهم هم گرف ان شالله خب آدم میگه بعدا سرشمت مجبور میشه جو. بعد اینم از این یه کار دیگه میتونیم بکنیم پستان. پچی شد اینا میگن اقتصاد درست کن اونا میگن این اقتصاد درست کردنه بیچاره میکنه مردمو نظام هم به این رو تا گیر کرده واقعا گیر کرده تا اخ... اینا انتخابات در پیش هست تابلو <تصفح> خطر انتخابات در پیش است. خطر شورش اجتماعی این طرف هم میگه تا که واقعا نمیشده خب مثلا بنزین 1500 تون ستون معقوله نیست دیگه خب وقتی فوب خلیج باز 50 سنته 50 سنت 60 سنت بزن 50 پنجو... الان بنزین میرسه اس... چیز... پاکستان یه دلاره. یعنی چقدر یعنی 70 تومن تومان هزار تومن تو عذاب سه هزار تومان این آب معدنی چند تومانه دونی میگه کجای دنیا همچین چیزی هست اینا میگن منابع کشور به باد رفت راست میگن اینا میگن ای فلان فلان شد گرون کنی راست میگن خب چه جوری نمیشه جمع کردن ماه بعد بخنشاص میفکریم چیکار که نه اینا در راه نه اینا رسیدن به این که گفتیم بنزینو بده به خود این مردم یعنی به جای اینکه تو برای ته این کاری که می کردیم می‌خواستی به سفره خانوار کمک کنی که اینجا فوش نده دیگه درسته بیا از اینجا بهش کمک کن چی آها خلق پول برای ساختم مسکن دو چی یادت دولت ما داره به از حال پول میتونه بده زمین مفت دوستان ما دوازده درصد ایرانو میتونیم بسازیم تا الان 1 رو ساختیم یعنی ببین او دوبه نه ها بردشته بیاب روقدر کرده نه دوده درصد که عالی آب هوا همه چی توپ رو گسل نیست و از این چیزا. یک درسش رو ساختیم خب بیا به هر خانوار متناسب با منطقه که داره زندگی میکنه بگو هر کسی اون موقع مردم زاد و میکنن نه ننگ کردمم میگه من یه میلیون پول میدم یه میلیون پول پوشه کشه تو... ب شما چ دا من دارم فید دست منه چی می بندم بچه شاید ایزی لایفه اون... ما قیمت و رو نمبرستن بالاست خب دو زمین مفتری میتونی به اینا بدی نگاه کنین دو دولت احمدی نجاد آوردن چهل همت بانک مسکن شد بانک متولی شد بانک متولی از طریق افضایش پایه پولی هم بود خب آوردن خلق نقدینگی کردن دوستان خلق نقدینگی کردن شد وام مسکنهای مه ما اثبات میکنیم این اثر ضد تورمی داشت. یعنی نه تنها چی 300 تا شغلو درگیر میکنه ساختم مسکن بعد تو کشور شما مسکن کم هم داری. یه مقص چیزی اضافه تر داری میخواد تنوعش بیشتر. دو تا خونه داشته باشه چی میشه؟ سه تا خونه داشته نه یه دیگه دارن شهر میرن تو کانکس دارن زندگی میکنن. مسئله سوم میادین خیلی مهمه. خیلی مهمه. میادان مشترک انرژی شما با کویت با عراق با عربستان میادین مشترک نفت داری اینا رو برمی‌دوری و 49 درصدشو میدی به برزیل هند چین سه تا کشور بزرگ بریکس خب 51 درصدشو پخش میکنه بین تک تک ایرانی‌ها بر مبنای کد ملی میخوای سیاست های مهاجرتی تو حل بکنی چرا نیاد تو ایران وقتی نون مفته گاز مفته برق مفته همه چی مفت تو اگر اینو مفت کردی بایی کد ملی از بیخ نمیاد میده برمامنه کد ملی خب مهیدان مشترک هم این کارو کردی یعنی تو برنداری نداری عراقیه برداشته عربستانی آمدن پنج درصد آرامکور رو دادن به چینی زینف شد تمام اون آره برای این بود آره میشه الازد ممکنه یه امنی ها میزنن با درصد ما کار ندارن خب این دقت کنید ببینید ما چند تا راه داشتیم درسته کسی که میخواد توی دنیا امروز میخواد یه اتفاقات بزرگی بیافته نقش کوریدوری ایران را حفظ بکنیم به دنیا بگیم نه بدون ما اجازه نمی‌دیم. هم زنگزورتون اون بالا فاتحش می‌خونیم هم این پایین خب اینقدر محکم وایستایم مشک میخواابونیم تو اسرائیلی که هیچ کس تو دنیا جاعتت این کارو نداره هیچ کس مثل سگ برخورد میکنن با حاک های کشور اروپایی اسرائیلیا اینجوری جت داریم این کار انجام میدیم این یه پیوست اقتصادی هم داره بیا برو این کارات هم چیکار کن درست. یک دونه اینها نیاز به خلق نقدینگی ایننش بلکه اون موقع از این چینیه میاد میگه میخوای نفت برداری ببری خب. این بابت این میخواد پول به من بدی بابت این سهامت به من چه جوریه اولا این هرچین چی 49 درصد خودشو بره بالا 51 درصد مردم رو برده بالا تو به سفره خانواده از اینجا کمک میکنی نه از طریق خلق پول دو این بانک های بی صاحب مونده تو بگم اینا مینو پولش کار میکنن دیگه اکاش کاش تو ایران میرفتن ملک میخریدن نه الان ارمنستان ترکیه گرجستان اینجاست عملا هیچ کار میکنه، اینم خوب بدونید یه پدر سوختگی دیگه اینا که انجام میدن فکر کچدن قرار تو شبکاشته من فوش میدن به حد این هست اونا نگران این حرف به گوش مردم برسه چون که به گوش مردم برسه خاشم میفهم مشکل کجا بوده عجب میدونم برای خیره برم بگیرن میان میگن که این بانک آ یه شرکت داره آپریم این بانک آ یه دونه صرافی داره این بانک ها توی پتروشیمی آزگوندم ببیننا اسمش عوض کنیم صرافی B دیدم چشوتون چی شد خب آره پتروشیمی C خب وام میدم به شرکت A خودم شرکت همینم مال من ها مال من بانک آلا همین تیکش میاد بیرون خب آره به این وام میدم ریال وامو گرفت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 میخواد ببر خارج اینجا هم خارجه این پول خارجه اینجاست میگم دو داشت بیا من تو داخل این پول رو میدم به تو تو تو خارج بده به اون یاری که ازش مل خریدم گوششون شما مخصو کاری که میکنن اینه به پتروشیمیا گیر ندید به بانکا گیر بدید این خطای این دوستانی که میروه پتروشیمی تعلیم وای میدونی این پتروشیمی سودش صد حمت شده میدونید فولاد سودش مثلا میاد فولاد میدونید سودش شده صد حمت این بعد بخت 2 دو میلیارد دلاره دلار 2 دو میلیارد دلاره دلار 50 هزار هم بشه میشه چقدر 100 هزار دلار 60 بشه میشه چقدر 70 بشه میشه 140 الان میگم دیدید 40 هزار میلیون این کلا پروفسور این داره دلار میفروشه برو کره نگاه کن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 پارسال برق بر قد میشد. اول اینکه که تعظیم میکن کجاست؟ فولاد. اینا رو قد میکنن. 400 میلیون دلار فقط بابت قطعی برق zarar کرده. 400 میلیون دلار zarar کرده. اومده چیکار کرده؟ گفته داداش من خودم برای خودم نیروگاه میزنم جون مادرتون با من کاری نداشته باشید. فولاد خودش برای خودش رفتن نیروگاه زده. رفتن سراغم نیروگاهش گفتن اخ کون برقاتو بیاد ببینیم بابا. جنگولادیمو آره بابا بازیت. بازید هرکمه اومد میدان نف... گازی داشتیم کسی کسی بهره برداری نمیکنه گفت من این میدان گازی رو خودم بهره برداری میکنم خودم پول میذارم سرمایه‌گذاری میکنم برمیدارم گازشو میبرم اونجا نیروگاهم را میندازم هیچ کاری با من نداشته باشید دیگه من با فکر کنم من خارجم فکر کنید من خارجم رفت اونجا ریختن اونجا اصفهانی اومدن گاز استان ما رو بدزدن ولایی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 نمیشه نمیخواد این کار انجام بده میتونم صد تا مثال دیگه برای شما کلا ما دو تا بچه ها شیلنگ تنفسی ارزی داریم برای دارو برای برابردن کنجاله برای برابردن قضا قضا دون مرق دون مرق <تصفيق> میگم دون مرغ یعنی آتیش میگیرم به قرام اصلا الان مرق با این واردات و با این قصه ها و همین دلار بدبختی بیچاره ایمون رو میاریم. دونه میکنیم میخریم میدیم به مرداری ها دیگه درسته گرونتر از اون چیزی که بریم مرگو از خارج بخریم هردم باتز در میرن کن می فرقش عوضش چیه داخلی داخلیه سنت بومیه میگم کلا زده نیست ایه چیکار میکنیم مرغ رو بزرگ میکنم ممنون دست شما درک کنه با گازایل مفت بعد دیگه چیکار میکنی چند نفر سر کار بردی بابت این کار دو اینجاش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 سمچب نباید کرد ما شاید خروصیه بر خودش اینجوری نگاهش نمی کن. <تصفح> خب بعد آوردم آور تا 600 گرمه بعد اون دقت کنه بعد اون زریب تبدیلش کاهش پیدا میکنه بعد روش کار کنی زریب تبدیل چیه میزان گندمی که میخوره میزان سویایی که میخوره و به گوشت تبدیل میکنه دو برابر اون یکی هست یعنی عملا تو باید دو برابر غذا بخری غذاتم که تو داخل, داخل تولید از برزیل داری وارد ن از اون تخته. کسی بود تو شما همین الان با روسیه بره ببنده بگه تو غذا رو به من بده رفتید این کار رو انجام بدید نه روسا که گور پدرشون خب کوچکترین حرفی میزنن به امریکا مثل بمبت ها که دیدید آمریکایا ها غربی ها هر کاری میکنن هر روز تحریم هر روز موشک بارون هر روز کسی چیزی میکنه اینا یعنی عقب رسانه ای داره من که با هیچ کدوم من نه شرقی نه غربی خداوکیلی شما اون 9 نفر بود سوال می‌خواید جان اسم تو بگو اول چی هم میخونی هم بگو آمد. جان خواه. نا من که دارم میگم بانکون اسمم میبرم آمارم میدم برید نگاه کنید <تصفيق> همه ی این بانک ها اسمشون اومده بیرون وامایی که به کارمنده خودشون میده اومده بیرون یا شفاف شده خیلی هاش هم که شفاف شده بدون با خاطر همین صحبت و همین جنگایی بودی که ما انجام دادیم ما که نه خیلی دوستان یعنی این جبهه گوش کنید نقطه شون چه؟ ایشون از قصه حسین کورد شروع کرد خب ما راجع به منطقه به طرف که حرف زدیم آه، خدا پدرتون بعد نه چون گفتی حسین کرده شبسته فکرم مثلا همراه با نوعی از کنایه و نقد خب فاتین هیچ اوکی هیچ خب بریم بعدیش راجب این که نحوی برخورد با اینا چی باید باشه درست الان شما سراغ این شبکه هایی که اینجوری شکل گرفتن برید اینقدر خطی و ساده نمیتوند باید برخورد کنید یعنی چی؟ من بودم میکردم او. من خودم بودم یقین کنید اینا رو به سلابه میکشتم. یعنی می آوردمشونی به کی وام دادی؟ این شرکت با چه اجازه وام دادی؟ با چه مجوزی دو همت به این وام دادی؟ این که واما گرفته کجا رفته؟ دونه دینا رو می میآوردم می آوردم در ملعه آم. حکش می در ملعه آم اجرام می کردم. خب اگر بنده کاره بودم حتما یه زندان بارها گفتم ویژه اینا درست می کردم، وی بعد به غیر از دستجوییاشون بقیه جاهای زندان رو لایو میذاشتن ملت نگاه کنن دور اینا رو عشق کنن بزنین شبکه‌ زندان خب شبکه‌ زندان نگاه کنین مثلا می دوشمی یا در بیاره بره اون یکی‌شون بیاد ویتنام چیکار کنه اون یکی‌شون چیکار کنم. بکنن مثلا جای هم بر نمی‌خوره تاش می‌خوان مثلا تو زندان لخشن ملت بهترا شدیدن خب اونم اتفاقی نمی‌افته چیز خاصی منظور من نیستش یعنی حزین باید درست کرد بر اینجا آدرس غلط میدن از نظر رسانه من چیه ببین من بانکا شروع کردم حرف زدن به مزر شروع کردم راجب مثالی فقط برای شما میزنم یکی از این بانک‌ها بانک سرمایه بود که وام داده بود به اینا خب ما با یه سری دوستان بود. مثل های میلاد گودرزی و کیوکی و, کی و اینا اومدیم دست گذاشتیم اصل کار رو روخه کارم بچه‌ها بودن ها میلاد گودرزی نا بودن خب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 خلق پول اینجا کرده بود دیگه بانک با وام دادن خلق پول میکنن قصتاشی که پس بگیره چکا میکنه محوه پول میکنه یعنی امی که اینجا رفته بود بالا یا میزانش کم میشه اما تو مملیشت ما ترمان محوه پول نداریم این رو که پس میداد 120 باید پس میداد 20 شمش ها سود چه ناسایی میکرد دیگه به اون بنگاه اقتصادی بانک داره کار میکنه سود کرده.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 بي بی... میلیونش که برنگشته 20 میلیونش هم برنگشته اما 20 میلیون سود شناسایی کرده ترازنامه‌اش مثبت می‌شد یعنی می‌تونستان بانکای ورشکسته رو بیارن چه این امحال بانک مهلت دادن و استمهایی که او می‌کرد طلب مهلت بعضی از این وام‌ها رو تا 10 سال عقب مینداخت اینم چیکار کرده بود مثلا وامو گرفته بود رفته زمین خریده بود بعد 10 سال ارزش این زمین می‌شد 3000 میلیار تومان خب میشه 3 همت می آورد این پول همش با هم جمع شده بود 120 تا با جدید باز بعد مثلا 144 تا برمیگردوند سال بعد 144 جدید 160 تا تا شده بود 200 تا مثل سگ پد می‌کاد جلو بانک 800 امیزاد دو 2800 امیزاد ببعدن متوجه شدید برای این نشریه فوربس میگه تعداد سوپر میلیاردرهای ایرانی میگه سوپر میلیونر تو من ازش میلیونر جس به چیزه به دلاره میگه ایران 250 هزار تا سوپر میلیونر داره عربستان سودی۲۵ هزار تو. همه اینا که اتفاق افتاده ۸ به ۱۴ تو دو سال آخر روانی چرا چون دلار جهش کرد؟ دلار جهش کرد یعنی ریال ارزش شد یعنی قیمت این ملکه یه حمتیش شد سه همت شد دو همت پولر پرت کرد؟ و واقعیت چیکار باید بکنیم با اینا؟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 همین بانک آینده نصف تورم کشور مال بانک آینده بود فرق. مال یه بانک خصوص عوضش چی؟ عوضش ایران مال ساخته به ما چه؟ باره باره بعد تو ایران مال پشمک ها عبدالله میخوان بفروشن؟ فقط کالای لوس فروخته خواهد شد یعنی بستری برای خروج ارز واردات کشورهای از کشورهایه؟ خارج رو برند بقید میتونیم بزرگترین مال جهانه دیگه میدونید عجب ام فساد در کشور ما بانکا ها آدرس غلط بهتون ندن برجام آدرس دوم سوم ماجراست اینو جلوشو بگیر جلو این چرخ رو متوقف کن با این 3040 میلیارد دلاری که هم که دارید دارو وارد کن غذای مردم سامان بده تکنولوژی پیشرفته وارد بکن کشور استیبل میشه زمین بده به مردم خونه بده به مردم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 ما تقریبا هیچ شرکت خصوصی نداریم ما تقریبا اقتصاد خصوصی نداریم همه چی خصولتیه. چند درصد ایران خود رو مال دولته؟ اگه اینقدر کمه، پچرا مدیرش دولت میذاره کجای کره زمین دیدی؟ یه دو دقیقه دیگه کاغذ نرم خودم فیتلر میکشم تویی؟ نه، اون فکرامو خو، خودام فیتلر می‌کشم پایین. این این دیوونه خونه ر داشته باشید ای ای اینا با خدا هستم یعنی هر جه کوری زمین بگی بولکی نفاس به تابعیت میده بزرد بزرد. چی؟ من رد دادم یه بابا. <تصفيق> خب گوش کنی من مراعتشون رو میکنم اگر فضو بری تو فای تو اینجور چیزها که من تا الان چیزی نگفتم اینا رو همه رو به اس میگم اون موقع خب اینجا گوش کنید این کارخونه سازیه طبعه ماشینه ما همی شکلی هن.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 گو من بلدم گو من باید 500 هزار تا زور بزنم موزخرفه رو مخ تا رو بکشن بیرون خب این نوع نوع راحت میگیره من اول بدین چی گفته ماشین چیه رنگیونه ماشین گرونه مردم مجبورن پرات بخران عراقی‌ها چرا میخرن عزیزم برای چی میخرن می صرف گرون تر از ایران هم هست. تو عراق دیدی از اینا این عفیا هستن اینجوری رفتن تو عراق پرات 3 میلیون بابا دیگه چیزو با لاستیکاش در میاد دیگه شریوری میگه هزار دلار قیمتش تو عراق سای بابش میگن هم سای با. سای باشه هزار دلار هم خرج پلاکش میکنن اونجا ما هم ش هزار تا رو مییم چهار ه میلیون اینجا پره چند آقا یه قیمت طبیعی بعد باید گرون پول صادرات و فلان و یه کشور دیگه حمل و بالا همینه عرااقه دیونست میخره نه میصرفه.۶ هزار دلار دیگه کمتر ماشین تو دنیا چیه؟ ماشین صفر ما یه دونه ماشین پیدا کردیم تو این دیدیم 4000 دلار رفتیم سرغش دیدیم موتوره به خدا آپشناش نزاده بود آینه عقب داشته باشد یا نداشته باشد میشه میشو 4200 نمیدونم بفالا اینجوری بعد اصلا موتور بدنش ماشینه موتور موتورش موتوره خب تو هند برای چیز سبک مثلا برای جابجایی سه چرخه‌ایه موتوره اینا چهار چرخشه گاران که چپ نکنن خیلی اینه این 200 میلیون تومان تمومش این بدبختیه 220 میلیون بفروشه دیگه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 چرا به همهشون نمیدید؟ بعد این چی میشه؟ این ورشکست شده حقوقاشو نداره بده میاد چیکار میکنه؟ میگه بیا ایربک در را به داغون میدازم ورقه را نازکترش میکنم دیدی؟ طلق لق لق لق حق داره تو هم بودی این کارو میکردی به امیرالمومنی المومنی خب حق داره این کار انجام ده میگه منم میام هم نازکترش این وسط به من بگو ببینم این ما به ازای 180 تا 500 کی میخوره می اونی که تو سه ثبت نام بکنه، اونی که بلد هک کنه، اونی که بلدن یوی 2000 تا با یوی به هر اخبارشون یادتون رفته؟ با ربات ثبت نام میکنن، یکی سری بلدان نمیدونم فلانا سهام اونو میخ... چیز حق ثبت نام اون یکی رو میخرن، کد ملی تو بردا بیار، اینقدر پول میدیم، اینا برای چیه؟ آقا من اینا به قرآن نمیفهمم. لامصب بذار این 220 بفروشم اینا 250 بخره. کجای کره زمین یه کاری میکنن هم تولید کننده ضرر کنه هم مشتری؟ به قرآن اگه جای پیدا کنه ما کیس استودیوی کره زمینیم کینو مطالبه میکنه هیچکی فوش میدن به این بدبخت فش فوش،, فوش فوش فوش فوش فوش فوش تحقیر فوش فوش پدرشو داره آوردن اما میرم ای ببین اینو بعد مطالبه کنیم بعد مطالبه کنیم بعد مطالبه کنیم ماشین ماشین واردات واردات ماشین آزاد کن که یه خورده این سرکوب قیمتی بکنه لاکچری بازی نگیره اینه وگر ببین وارد با داد با ما وارداد با این چیزا مسئله حل بشو نیست این،, این ایراد داره بعد حالا چی شده بچه این ورشه که از شد میخواد حقوق بده نداره صد هزار تا کارمند داره خطرناکه باش بیاییم گهن تعطیلش کنیم یکی نشسته حساب کرد بگه مثلا این نور رو کنیم. بعد ورداریم چی بکنیم بیمه کارگری بدیم به کارگراش کمتر ضرر می‌کردیم خب میگه نه دو داشت سنتی رو تونستی بومی کنی خودت بسازی فلان فلان با هر تحتیل کنی دو نریزن جاده تهران کرد جو ببندم نریزن مسئله امنیتیش میکنن شما که میگی چرا کاری صورت نمیگیره هپکو یادته میریختن راهن تهران عراق رو میبستن. هپکو کجای ماجراست نسبت به ایران خود رو خودرو پا اندازش اصلا اسکیلش تو چقدیه ماجر ماجر امنیتی میکنه خوب چیدن انصافا بعد بلند شن کلاه یه رو براشون دست بزنی مسئله دیگه اینکه کم آورد میگه من دیگه می‌خوام الا کسی کنم من میخوام برم توی دولت دولت حداقل‌ترین سهمو داری اینجا داره برای من رئیسمو تعیین ما بابامو درو وردی قیمت تعیین میکنه. چه ولم کن دیگه میگه نه ترس به دوام میدم یه دستور میده یکی از این بانک‌ها صد حمت به این وام میده خلق نقدینه ی شرط بالک انشاء خلق نقدینگی رو کد داد به دلالا بعد موقع پاس کردنش این که نمیتونه پاس کنه پول خودشو رو ندوش بدبخت بده نمیتونه پاس کنه همینجوری جوری استمحال صدمیشه 110 120 همین همینجوری میاد پایین همون که بهتون گفتم نه تاش میگه اصلا دیگه ندارم بدم میگه اشکال نداره وزیر سمت به بانک مرکزی داداش این پولشو نمیتونه بده این بانکه میاد میگه من چه غلطی که نگران نباش بانک مرکزی با تو صاف میکنه بانک مرکزی چی صاف کرد خلق پول گفتم یکی از روشای خلق پول گفتم یه دنیاست من وقت ندارم براتون بگم تو این چرخه یکیش با خود رو داره صورت میگیره تو این مملکت که چی ما خلق پول کنیم کل مردم رو داغون بکنیم دللامون عشق کنن ایران بهشت دلالوس اینا که برای پول داشتم میرن خارج خرن چیه؟ آه سوال بپرسه ببخش من گفتم هر که میره کنید من این بیتربیت شما رو داد نه اینو خیلی هم گفتن سوال میخواد بپرس بگو بگو پندق دیگه چی کنید مسئول سوالان چپ. چپچه ببخشهای جان آه رفتیم رو هم سوال اصله که گفتم بپرسید بگو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 دجل و فراد که کر کار کارکت کرد, کرد. این طرف هم هندی ها برای اینکه حال پاکستانی ها رو بگیرن افغانستان چون کوهستانی سرچشمه خیلی از روت هاست میگن اونجا صد بزن که حال پاکستانی ها رو بگیرن. اما کنار پاکستانی حال ما هم داره گرفته میشه ببینید وقتی میگن آمریکا شیطان بزرگی یا سهیونیست و حرام زادن شما فکرون مثلا بچنه علکی واقعا خود جن واقعا خود جنسانی اصلا رود بعید میدونم تو سیارات دیگه هم خدای همین پدر سوخته ی آفریده باشه همینجا آفرید فقط بالا با تو دنیا تنو که جلوی اینا در افتادن دارم با اینا درگیر میشم مهم اصلا فکر هم نکن یه جایی اصلا این نیستش که مثلا اون اراده هم باشه ما اراده داریم برای نابودی صحیح نیستا اما یعنی جمهوری اسلامی اینه. اما بدون اون میاست اصلا این نیست تو کارنا نشستیم بغل ما تو خلیج خوکهاییم ما تو خلیج مکزیکیم اون تو خلیج فارس دور تا میگه منو ببخشید ما و کشورمون وسط پنا چی پایگاه نظامی شما ساختیم دور تا دون پایگاه اون پایگاه نظامی اون ول نمی کنه اون میگه من تا ابد میخوام ابرقدرت بمونم نمیخوام شما نفس بکشید آقا من مشکل ندارم اون تو اینا سوال نمیپرسن چیکار کنم بلند بلند خب, خب. نه. با دیر جواب دادن یا جواب ندادن چی؟ کدوم یکی؟ ببین من اینو قبول ندارم یه خطای راهبردی ما کردیم. من اینو قبول دارم ما کاری که همون اول باید میکردیم که به اینو وقت و قاسم آمریکایا زدن، دقت کنید. اسرائیل‌ها رسماً اعلام کنه گفت ما نقش نداشتیم. چرا؟ چون ترسیدن. وقتی اسرائیلیا پایگاه تیفور ما رو تو سوریه زدن و ما شهید دادیم، ما خون پاره زدیم دیگه. از اونجا به موازات اینا تو جولان قمپاره صورتیه. سری روسا رو فرستادن واسطه کردن گفتن تو رو قران دوم نه فکر کن حمله وعده داده شده ما چک گرفته. می‌خوام که بزنیم. یعنی می‌ترسید. توی روندی دستگاه محاسباتیش به این تحلیل رسید که می‌تونه بزنه. حرف‌های در ایران شنیده می‌شوه که مردم همراه نیستن. اینو خیالش راحت کن. اینکه رهبر انقلاب گفت یک کاری کنیدی دستگاه محاسباتش برگره به تنظیمات کارخانه خب همینه ببینید دوستان ما مانور برگزار می‌کنیم برای اینکه خودمون رو همه کشورها مانور برگزار می‌کنیم انکه خودشون چیکار کنن اورهال کنن خوب همیشه تاپ نگهدارن تو مانور سلاح جدید رو نمایم می‌کنی و اعلام میکنی امروز ایران امروز پاکستان موشک شاهوین سری نمیدونم ایران موشکی ندارم چی چی برای چی برای چی اد به دشمن میگم من موشک دارم بعد بگی وقت الاغ حمله نکنی ما اون صدام احمق دستگاه محاسباتیش ریخت بهم به فکر که 3 روزه میتونه تهرانو رو بگیره هم خودش رو بدبخت کرد هم ما رو ما ما بگیم ببین ما دومال جنی نیستیم احمق ما ما حمله نکن ماجرا رو تسعید نکن اینجوری نیست رو بزنی یه نیرگاه اتمی رو بزنی من بیکار بشینم از الان بدون میتونم بزنم اما اینو رهبر انگلا گفت بد عمل کردید یه پالسای مصاحبه های بعضیاتون ایشون این عبارت نگفته من میگم یه پالسای در داخل که آ مردم افغانستان حالا ببینیم چی میشه ما میخوام ببینیم حالا آتش بس جواب میده یا نمیده فلان خب این اثر بد گذاشت اون غرگو تمعکار کنه سوریه هم همینجوری بود اول ما یه بار حمله که برگشتی خبره الان اتوبان شده یه هر روز اپماش میره سوریه میذانن برمیه تو خیالش راحت فهمیده چی اینو تثبیت کرده تو توازن جت این نباید اینجوری باشه چپ نگاه کنه بخوره سری ام بخوره خیلی سریع با سرعت با سرزر بخور که بفهمی تو و متنوعه هم بخوره مثلا به من بپرسی چی میگم آقا بزنی بخش انرژیش رو صاف کنی موتورش رو پایین چون اون نمیتونه بخش انرژی رو بزنه بزنه قیمت دلار نفت مرور دویست دلار خود اروپایی آمریکا امریکا میان جمعش میکنه اینه یا یه جوری بزن اون حیفا ار خارج کن که کل کریدور هوا کرده باشی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 این نیست امنیت من رو به خطر بنزید این مدل تصمیم گیر تو کشورمون کم داریم اون تحتیه جان من بودم بله تو کشور ما تحلیل های که میگن یه جوری بزنیم که ترام سر کار نیاید اینا مثلا بهتره خب این واقعیت من بودم اصلا با انتخابات امریکا کارش هم شب انتخاباتم میزدم شایدم زد خب که چی که بگم ببین اسکیل من گنده تر از انتخابات توه متوجه شدید چی که ترامپ بیا سر کار تباتش برای کی تنگیر میشه چی میشه تحریم ها میشه کدوم تحریم الان دیگه بعدش دیگه جوکشه تحریم هستن دیگه مثلا که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 بله. حضرت من بله. خب. سوالشون اینه برادرون. آقای آقا صبحان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 میگه فلسطین حتی رفتن واژه سازه کردن این پدر سوختو فلسطین در لغت به معنی مهاجره اینا از یه جای دیگه اومده از کشور دیگه اومدن اینجا مهاجرت کردن یعنی چی یعنی مال اینجا نیستن یه خانم اسم آریل اوپنهایم استاد ژنتیک دانشگاه ابریو اورشلیم چه رسم میدم برای اینکه سرچ کنیم اومد این مطالعات ژنتیکی کرد مثل بم ترکید نتیجه چی بود نتیجه این بود که یهودی اشکنازی هیچ ربطی به حضرت یعقوب ندارن. اینا اصلا ربطی به حضرت موسی ندارن، اینا چهل درصد ژن مغلی دارن. بله. اینا از خزرهان دیگه، اینا کوچ کردن رفتن به شدن یهودیای یهودی اروپا شرقی، لهستان، بلاروس، اوکراین، رومانی، مثلا همین نتانیو و لهستان اون شورون بی شرف بلاروس بود اینا یهودی های اشکنازی. اصل قدرت هم اونجاست این چل درصد جالبه چل درصد دیگه ژنم باز مال قفقاز بوده این آخونداشون خاخاماشون کلاهی که سرشون میذارن یهودی های اشکنازی ایدقت کنه یه کلاه پشمیه بزرگه این چرا کلاه پشمیه کلاه منطقه قفقازه خب اینا یک شبه همشون یهودی شدن رفتن اونجا و این خانم دکتر در ادامه تاعیقاتش متوجه میشه و یه دکتر یهودی دیگه من عمدن رفتم دو یهودی پیدا کنم دهن اینا رو ببنده اون یکی که میگه آ هرچی میخواد به من بگی من یهودی هم باید حق حقو بگم ارائهش تو تد هست برید ببینید 20 درصد فوق العاده است اونجا اثبات میکنه که فلسطینی های مسلمان و عرب ژنشون به مراتب به یهودی ها نزدیکتره تا این یهودی های مهاجر یعنی چی یعنی ساکنان واقعی سرزمین فلسطین یک زمانی اول چی بودن؟ یهودی بودن. بعد چی شدن؟ مسیحی شدن و بعد چی شدن؟ مسلمان شدن. اینا جدن در جد باباش اینا همونایین که اونجا بودن. اصلا همینان با موسی اومدن. <تصح> <تصح> یه شد ببینید خوبیه ژنتیکینه. مثل ترکای جلسکین دستا برام بالا. برم ما شاء الله. ها. مثلا مثل گوش کنید. مثل تورکای ما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 اینا بعدا اومدن چی؟ شمال قفقاز مستقل شدن. آذربایجانی‌ها هم چی؟ جنوب. آرام آرام زبان اثر گذاشت. مثل مصری‌ها که عرب نیستن زبانشان عربی است. جان کی؟ خوزستانی هم داریم. آقا اینجا باز به می مالات ژنتتی چون چ این نفهمگه آقا این کی گفته اینجوری نیست فلان بوده این حرف رو میشه ژنتی همه چه اثبات میکنه؟ مردم آذربایجان ژنم مادرشون 99 درصد با بقیه مردم ایران مشترک. کی میگه دکتر اشرفیان بناب ضد انقلاب استاد دانش اصلا اصلا انگلیس. ایشون افشما بناب خودش ترکه بنابیه خب کباب بناب خورده دیگه آفرین این ماده اثبات میکنه. ژن عربی در مردم آذربایجان بیشتر از ژن ترکی است این خیلی عجیبه یعنی سادات آره بیشتر تا این مطالعات حوزه زبانشناسی که بنده بسیار بهش علاقه دارم و به خاطر این مطالعاتم لازم دارم و رفتم یاد گرفتم و با اساتید مبرزش در ارتباطم و مدعی هم از هم یه جاهایی این هم اینا اثبات میکنه مثلا بسیاری از ببین این ببین بگو میگه همینجگیه هم اولسا نه پشم خسته شدم نگاه کنید این که ایران بوده ایران امروزی میگم ایران کوهن رو نمیگم چون ایران کوهن همین بزرگتره دیگه خب چه روشا کن اینو رو ولش کن به ایران بگیم خوبه درچه دیر بش اونجا من برم تو هفت دیگه باز دیه فوشر میدن به ما نگاه کنید ببینید این منطقه بچه ها این منطقه این منطقه منطقی بسیار سخت از نظر زمستان هاش مردم کوچنشین از دشت آلتای تا مجارستان میکوبیدن پنیزار می اومدن میرفتن حمله میکرن نونشون از چی در میوردن؟ حمله میورن بر خود آریایی ها که الان اومدن تو ایران یه زمانی از همین ها بودن آره نه, نه، واقعیت روزی بیار همین ها بودن منطقی صحبت زرینه که کی اومدی یک جانشین شدی؟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 به ایران حمله کردن به اروپا حمله کردن جرمن ها و این قصه این عدد قدیمیه چار سال اینجوریه خب اما اینجا خالی از سکنه بوده خیر، متولات جنتیکی نشون میده بشر اولیه که اینا میگن از آفریقا آمده و صفحه عربستان گوش کنی صفحه عربستان و آفریقا رو یه صفحه میبینن چون خلیج دریاسو خیلی چیه کم امقه تنش های آب و هوایی یعنی عبور ازش راحته یکی می اینجا که بشر اولیه بوده اولین جایی که اومده سکنا گرفته ایران بوده. همین وایکینگ ها هزار سال پیش از ایران رفتن. مطالات ژنتیکی رو تایید میکنه. خب تو نمیدونم اینا اومدن اینجا حمله میکنن ببین اینجا سرزمین ایرها. ها رو مکانی بگیریم میشه چی؟ ایران؟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 هه سه خیلی به هم تبدیل میشه به خاطر اینکه تی ایچ مینوشتنش تی ایچ تلفظش میکرد اینو هم ده تلفظ کردن هم هه تلفظ کردن هم سه تلفظ کردن درسته؟ مثل هند و سند مثل محتر کهتر بزرگتر؟ به جای هه بذار مستر کستر مستر یعنی بزرگتر بلوچ داریم اینجا؟ چی میگن؟ مستر کستر نداری چما؟ خوبه. <تصفيق> آره بزرگتر کوچیکتر همین الان استفاده میشه. سه تلفظ میکردم. هنسن ده میشه چی؟ دسی ده تایی ده تایی. خب داری این سه چیزا جا خب ماه دهم ده میشه چی؟ آفرین دسامبر. ماه نهم نوامبر. ماه هفتم ه هفته. نگاه کنید. ه سه ف پ اینم ت سپتامبر. هشت اکت هشت. هشت اکت اکتا پا اوز اون اوسش که یونانی هشت پا اکتا اکتبر ماه هشتون سب کن جان نه ماه دهم ده ماه, ماه ده همه. چرا اونا میگن ماه دوازدهم همه برای که خولن چون اوله گوش کنید بابا این افت... تمدن ماست اون خارجی بعد من مهم رئیس جمهور رو ماگه ما میفهمید رئیس جمهور ما بولا میشه میرفت کشور خارجی اینجوری حرف میزد خب این فروردین ماست فروردین اول سال بوده هر عاقلی بهار رو میذاره اول سال اینا ما دسامبرش ما دهم ده اینا اومدن اسفند و بهمنم اضافه کردن به خاطر چی مگه گفتن مسیح اومده اینجا به دنیا اومده دو ماه اضافه شد دسامبر شد ما برای میلادی قاطی نکنم اینا رو میگم دو تا گوش فهمیدید ریشه ها اینجاست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 گیل ها گل ها الان مردم کروات اینا, اینا از ایران رفتن خب ایران مهاجره ایرانی بودن اینا خیلی دیرتر رفتن بله زبونشون خیلی اشتراک دارن ما الان در قفقاز یه منطقه‌ای داریم زبونی دارن زبون ایرانی اسم زبونش ایرانیه وقتی حرف میزنن کلماتی که دقت میکنید و گوشتون به ریشه ها آشنا باشه قشن میتونید تشخیص بدید خب من این چی؟ من نمیشناسم <تصفيق> اونجا کجاست <تصفيق> خب بذاریم چی می بگو روستای چی؟ اونا هرچی بگی من در میرم این رو رفتم تطویشتم اونا مال رومانی هست چند سال پیش یکیشون اومد توی فیسبوک آره. روستگاه زر نمیرم چی چی بود زرگر؟ آه. ببین اونجایی؟ باشه حالا یه نفر اومد آره اینا باید بذاری ردیف جلو این دوتا را که بلش کن آره اینا رفت یکیشون اومد تو فیسبوک گوه آقا ما نمیدونیم زبونمون چیه یکی بیاد به داد ما برسه سه تا از جمله تلفظش تلفزشو فنگلیش ما چون می نویسیم اینجا گفت کسی میدونین چه زبونیه رومانیایی ها اومدن گفتن تو داری به زبون ما حرف میزنیم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 اون چیزی که داشته رو گوش کن. داشته رو ماده‌لش رو ببینه میگه. آب بوده، اینجا سو ببینه میگه سو. اما چیزی که نداشته، تا الان مثلا بریم ایتالیا میگه این چی شما میخوریم میگم پیتزا. آها، اینا بده. یا مثلا اروپایی‌ها رفتن استرالیا، کانگورو ندیده بودن، اختصاسی اونجاست. گفت این چیه؟ گفت کانگورو. کانگورو یعنی چی چی میگی؟ به زبان بومیه اونجا. این گفت این چیه این کو چی چی میگی الان اروپایی‌ها میگن چی, چی میگی همه دنیا الان ما داریم چیچی چی میگی ما اسم اصلیش ما میگیم چی, چی اصلا زبانشونو چون نمیفهمیدن ببین چی داشته این آدمی که تو این منطقه بوده بچه‌ها گوش کنید یک اسب چی براش مهم بوده آتش دینش چی بوده شمنیست بوده تنگری باوری یا تانری باوری خدای خورشید خدای ما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 میانه وسط راه مرند مندگاران ها مراقه همه قذبین شما مراقی ها ندارید اینا از مراقه با حمله مغوله ها فرار کرد اومدن این طرف میخوای بیدنی من دو آذربایجان قبلا زبونشون چی بوده ببینید مراقی ها زبونشون چی نزدیک علموتان خب اومدن روستای کندوان کوه میکندن دیگه اسمش چیه کندوان رضاشان میخواستیم تونل رو بزنه تو جاده شما رفینا رو گووید بکنید شما تخصص کاری دارید کندوان اسم تونل شو کندوان خب اما منا... موانع تبیری خودت میگی لشگر کجا اوتراخ کنیم کنار اون کوه بزرگه گراداخ قره باغ دله چای آجه چای رودخانه وحشی رودخانه تلخ اینا رو تو اسم میذاری بعدن یه سری از مناطق هم بعدن اسمشن هم چرخوندن مشکل اما اصل میبینی نو سرجوش اینا, ها زر جش. اینا دو هزار سال اسمش همینه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 نه می درست بریم وقت نداریم آذر آره بیا وست آذربایجان اشتباه چرا داغستان روسیه است جنوب اشاره درسته درست, درست. آفرین داغستان جنوب داغستان نه درست میگی دربند داغستان اینا شش قد شد اینو با اینترنت ها آره ببینید دربند خب این درمن بریم بریم شهرهایی زیرش مثلا اسمشون چیه اینجا سیاه زنه اسمشون فرص خب ماد ماد یعنی چی کسی میدونه ماد یعنی گل ماد یعنی گل انگلیز. گل انگلیسی شمال همینه چرا گل اینجا یکی از بزرگترین اتفاقات کره زمین میفتاد بر همین زرتوشتیگری از اینجا در آمد از آذربایجان چی اناسور عربعه یک جا تو زمین یه جا پیدا شد و به صورت شگفتانگیز و مجیک و جادوی دشت باریکالا گل فشانهای پلتخ ولکانه میگن ولکان یعنی چی؟ آتش فشان ببین گاز میمد بیرون باد آتیش میگرف آتش گلم که داشت خاک و آب آب باد خاک آتش کنار هم دیگه بود برای همین مقدس شد دشت مقان مول اینجاست مقاها که بودن دانش ویژه ای داشتن تو مردم وحشی اون زمان همه کف میکردن علم ستاره شناسی بلد بودن بر همین دانش اینا شو چی؟ مجیک آنچه مربوط به مقه هاست یور مجستی آلی جناب حضرت. اصلا که ادبیات سلطنتی و عالی جناب مالی جناب بازم مال ایرانی هست خب کلمات حتی عربی شاه تو عربی رفت شد شه چیزی که لذت بخش مال شاه هست. وقتی شما جامعه رو. شما مانه معلم از هویت توهی کردی گذشته شو از بین بردی رسالتاشی منم گم امروز گروش کبیر بود نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل بیتفاقت بود یا میرفت دهنشون سرویس میکرد این اصطورا همین کار ما رو میکرد چما من نستاند حالا اینجا نگاه کنین این که تا اینجا بچه ها کار کرد اینم هدیه به شما رفت مسئله را این خط سفید رو ببینید این دقیقا همون خطیه که اینا سر رد چند چیه اینجا این سفیدی؟ <تصفيق> تمام برف یعنی ارتفاع نمیتونستن رد چند اون گذرگاه ها رو بست با چی؟ با آهن و مصر زلغرن مگه نمیگه برید اینجا ببینید معدن آهن داشت کسند ماله که یه بل زمان و عصر مفرقه نمیرفتی که کرمان بردونه مصر ببره از همونجا ابزاری که دم دستش بود ما چیکار کرد همین الان من و شما سنگ میچینیم برای اینکه نریزه توری توری آهنی نمیذاریم یه سازه فلزی که سنگ توش گیر کنه اینا نتونه رد شد یه تیرانداز از بالا میتونست یه لشکر اینا رو چیز بکنه نگه داره اینا موندن شمال به وضوح بین چهره های جنوبی کوههای قفقاز و شمال قفقاز تفاوت آزربایجانی تو چشاو ابرو تو, تو همه چی کاملا اینا رو یعنی به مراتب خراسانیا ها بیشتر تحت تاثیر جن شرقی قرار گرفتن حملات اونجا تا آذربایجان تو, تو کوهودا حالا من موندم یه عدی تو آذربایجان قفلی زده اینا مشکوکنم جن انگلیسی به زور میخوان ما رو به کالا توران میخوان بسازن میگن چی میگن نه ما مغولیم بو نشسم به قراق به جور در بیا داخل مغول بودن اشکال نداره این نکشم الله اخلاقم انسان بودن ما اما خب مغول نیستیم چیکار کنیم به میخوای بگی تو تبریزی ها رو به چی به چه شب رو رو به چه شب روش رو می شناسی خاهش اون جنشرقی آلتایی که دقیقا چش ها اشکالی ندارد و باز من تاکید میکنم خدا پخش کرده هر جوری ازچی هر خاصاففری سیاه که سیاهی که سفیدلتعارف بود برای کمدیگر می شناید اینه اون نبد این رو بهیم دست میزنیم این اشتباه ما میخوام اون کسی که مثلا هم ژنتیکی ترکی بوده هم زبانش ترکی بوده تو ایران بگم کی هم بتون نعرضی ترک منمون همون چهره رو دارن هم زبانو نگا. آراما آرام ام آرام اینجا آمد برای هم مثلا اینا اومده بودن قزه کوفته مال ما بود. نداشتن. اسم قزاره چی میگن اون موقع؟ همون که هست. میگن چیه؟ میگه کوفته میگه چوفته. یه خورده فقط تلفظش اینجوری میکنه. چیز دیگه نیست. انار نداشتن. همینا میگه. واصوری که مال خودمون بوده، فرهنگ ما بوده، مال ایرانی بوده، همین استفاده می‌کنه. آرام آرام آرام آرام این زبان سه بده؟ نه، خیلیام خوبه. افتخار می‌کنم بلدم هستم. صد جام به درد خود من خورده. کشور دیگه رفتم عربستان رفتم با همه صحبت کردم، با ترکیه ارتباط گرفتم. خود ترکیه ای ها ما چه چیز نیستن؟ و ترکیه ای تو اینا بیزانس شرقی هن. اینا هم مثل عربا که زبانشون مصری عربی شد، اینا هم زبانشون ترکی شد. چی؟ شما تمدن اینجا بوده شد اولا همه پیغمبرا اینجا نه خیر ببین هر کسی از, از آسیا می اومد اینجا بارانداز بود بره بالا منطقه خاوریمه شد منطقه انبیاء الهی خدا به حضرت ابراهیم که زاگرس نشین بود دستور داد حالا ما نمیخویم به خدا هر به ایرانی یا رب بدیم ما نه زاگرس نشین بوده اورم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 خب ایشون بلند شده رفته شو باید کار بشه چرا انقدر سا چرا ساعت میشه که حالا اگه بچه تاریخ و جغرافی چرا انقدر یهودیا براشون اشیاءاتق مهمه چرا انقدر تاریخی کار میکنن برای اینکه اینا رو بتونن بپوشونن برای اینکه بتونن تغییر بدن اینا نه خیلی مهمه دوستان پس این منطقه ادیان بهش دستورو داده شد برو فلسطین چرا فلسطین نگاه کن آسیا اروپا آفریقا بورو تو لولای صغاره پیام توحید رو پخش کن کرد 2.5 میلیارد مسیحی همه ابراهیمو قبول دارن دو میلیارد یک میلیارد مسلمان همه قبول دارن حتی بقیه میگه یا زن دیارش به اسم کتورا یا قتوره از اون هم 6 تا بچه داشت حضرت ابراهیم که هم تا بحر فارس پخش شدن یعنی تا ایران اومدن پخش شدن ای بسا برحما همون ابراهیم باشه که رفت در هند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 حضرت اسماعیل عرب نیست مستعربه عرب عدنانی مستعربه عرب قحطانی عربه خود لفظ عرب یعنی چی بادینشین تو، توریک یعنی چی پارسیک و توریک شو ترک یعنی بادینشین نشین جالب عثمانی ها عثمانی ها به توریک ها فوش دادن تو خودت از اونایی این معنی چیه یعنی من یک جانشین دارم به اون بادینشین نشین چیکار میکنم توهینای بدی کرده که من نمیگم فشت داده که اونا هیچی نمیفهمن وحشین نه نه نه اثمانی ها خودشون نه خود همین اکجان ببین اینا در اصل سلجوقی اومدن اینجا وایستادن یک جا حکومت کردن اینا به اینا, به اینا فشت دادن به بالاتریاشون فشت دادن گفتن هنون مثلا به چنگ ها برید شما تحقیق بکنید اینا به حدی جنگجوهای قدری بودن اما وحشی بودن مثلا یهو میگه من وارد چیم خیلی از اینا تاریخ‌دانان عرب نوشتن میگه من وارد اونجا شدم احمد ابن فلان که از ایناست که خوندنیه سفرنامش حتما فیلمش چیزو ببینید 13مین سال اشور 13مین زندگی احمد ابن فعلانه فیلم دیدنیه خدمت شما عرض کنم باندراست بازی کرده دوبل فارسی هم شده برسونم دانشگاه خراب شده تون بذارید ملت بیان بشینن نگاه کنه عشق کنید خب چاشمون هم حتما خب بعد جلسه به من فیلم آفر بدیم منم نگاه کن بعد برید اونجا نگاه کنی قصه اینه اینا وقتی وارد میشن میگه بچنگ ها بچنگ تو توز جمعه آدم آب میخوردن که بیش خونی بوده دیگه میخوای بترسونی ایجاد رعب وحشت کنی در تون خب بچه ها سرتون در رو ببخشید ما هم هنجرمون در دیرفت یا علی خدافوشون یا سر